وارد سلام خدمت اگه جزور دیدم بیشینم خدمتتون باشه. وارد با سلام خدمت دوستان عزیز و از اینکه فرصتی رو دادید مجازدار بتونم موزایم برتون برکنی جزور کنم. پیش از اینکه بحث شاید اصلی که تعامل رو به تامل سوپر و دانشجو رو بخواند داشته باشیم، منم به نوبه خودم میخوام تبریک بگم به آقای دکتر مختارزاده. برای هم زحماتی که تا حالا کشیدم و هم برای موفقیتی که در تموم کردن کار دکتراشون داشتن. چون اگرش بحث اصلی هم امروز تو همینه که بر حال دکترا یک حالا به قول اینجایی میگه جرنی هستش و چه از روز اولی که آدم به فکر این داستان میفته و شک میده به این موضوع تا زمانی که اون رو تکمیلش بکنه و تحویلش بده. مو تو تکمیل اون به همین جا هم نمیشه. حالا شما لوس کردی و تقریبا رو به عمل آوردی ولی قطعاً بعد تو یه فرصت دیگه ای بتونیم از زحمات ایشون هم تشکر بشه و معمولا هم کسایی که درس رو تمام کنن شیرینی میگیرن منتها الهی این که گفتیم فقط یادآوری این داستان رو هم داشته باشیم یعنی عرض کنم خدمتتون که من اولاً عذرخواهی می کنم بابت تاخیرم امروز چون جای دیگه جلسه داشتم و متأسفانه مقدار خاطر بارون جلسه اون هم تاخیر افتاده شو اینا من دیر رسیدم تا برم دفتر برگردم بیام دوم هم این که شاید سوی تفاهمی که در جلسه قبل پیش آمد و سر زمان چون من استرالیا نبودم تو اون اونتا این برنامه زمانی که درست شد یه مقدار با برنامه که قبلا اون روز برای من درست شده بودش مصادف شد و عملا امکانه برای آمدن منم نبودش اون جلسه و آقا محسن لط کردن و اون جلسه رو آمدن و صحبتهایی رو که بعد من خلاصهش رو میخوندم تو همین دایلکشنی هستش که بحثایی که حالا امروز هم خواهیم داشت دیشب داشتم فکر میکردم رو نکاتی که قرار صحبت بشه یا به نظر میرسه که نکات اصلی باشه که شاید منم از یه طرف دیگه به اونها رسیدم و یکی بحثایی که با دوستان داشم رو اینکه که شاید بد نباشه با هم دیگه مقدار صحبت با اون معروف همزبونی داشته باشیم و ببینیم چیکار میشه کرد توی این داستان من یه قدم برمیگردم به عقب و یه نگرانیی که روی حوزه بچهای ایرانی توی حالا تو دانشگاه ها و تو تو کشور استرالیا کلا وجود داره و به خصوص حالا دانشگاه ملبورن که درش هستیم رو میخوام بگم که همیشه یک رکورد بسیار خوبی رو داشته یعنی تو تمام جلساتی که ماها می میشه سیم صحبت های پیش می اومد واقعا لازم نبودش که مثلا ما هم بخوایم دفاع بکنیم از بچه ها بگیم بچه ها این طوری هستن یا هم کامیتمند دارن هم محققای های خوبی هستن هم مواردی که می تکمیل بکنن و همه همکارای دیگه ما به راحتی این مسئله رو و به وضوح مطرح می کردن و افتخار این که با بچه ایرانی کار بکنن و حتی موضوعی که ما یک سال قبل بحث مشکلاتی که رو بحث گرفتن دانشجو ایرانی و پراسس های جدیدی که برایش داشت مطرح می شد یواشتباش همتی این رو برای همه اعضای دانشگاه بود که اگر یه همچه اتفاق بیفته، ما یک بخش اعظم دانشوی خوبه ما مال این مارکته و ما این رو دست خواهیم داد یعنی این رو همه به عنوان یک مشکل باش مطرح کرد حتی ما توی جلسه مسئولین دانشگاه سال گذشته جلسته. چون سالی دو روز ما معمولا دانشگاه میریم بیرون با مسئولین ارشد دانشگاه برای گذاری های سال بعد بحث میشه اونجا به عنوان یکی از این موضوعات هم مطرح بود یعنی حتی مطرح شد و پیرامون و قدری هم صحبت به عمل اومد که چه کار باید کرد تو این داستان در هفتش ماه گذشته به خصوص یه تعداد از مشکلات رو محلان دارم میبینم بیشتر داره هی حول بچه ایرانی پیش میاد. حالا تعداد که متاسفانه در طول شاید 14 سال گذشته به این نحوی که در 7 ماه گذشته تعداد کیسایی که با مشکل دارن روبرو میشن یا شدن اینطور اصلا نبوده یعنی ما در 14 سال گذشته اصلا, اصلا نداشتیم به این فرمی که یعنی حتی یک موردم در چندین سال هم نداشتیم ولی الان در این هفتش ماه و یک سال گذشته که بخوام جمعبندیش کنم یه مقدار مشکلات داره بیشتر خودشونشون میده و یه مقدار داره کیسا بیشتر میشن. و این کیسا هم نه فقط بچه های به دانشگاه میلبون حتی دانشگاه دیگر رو هم که حالا دوستانی بودن که لفت داشتن اومدن حالا مشکلشون رو با بنده مطرح کردند و مواردی که داشتن وقتی رونا ها کردیم کرد با همین، سنخیت هست با همین نوع مشکلاتی هستش که بچهای ما هم تو دانشگاه میلبورن دارن باشون روبرو میشن و فقط هم به یه دانشگاهی خاص هم هم نمیشه تو همین دانشگاه میلبورن هم باز من با چندین دانشجو مختلفی روبرو شدم و مسئله که مطرح کرده و مواردی که وقتی کنار هم میچینیم میبینیم همشون باز از یک نوع هستن شاید وقتی بررسی دریم میکنیم میبینیم که شاید میشود یه تعدادی از اینها رو این مشکلات که امروز بهش رسیدن شاید نمی رسیدن اگر از اول استراتژی خاصی رو پیشه می گرفتن و تعاملشون با اون سپروائزر خاص می تونسته مناسب تر باشه و ضمن این که خیلی هم آدم نگران این داستان میشه هم تأصف از این قضیه میخوره. برای حالا اون فرد خاصی که این اتفاق براش افتاده ولی در کنار این موضوع برای حال در مجموع وقتی که تعداد این مسائل زیاد میشه اثری که بلند مدت توی اون رکوردی که بچه های ایرانی تا حالا داشتن هم میگذاره یعنی یه نکت نکتهی که ازش این ارز کردم بچه های ایرانی و کلن فرهنگی که به جا گذاشتن، اعتبار علمی که به جا گذاشتن یا ایجاد کردن در طول سالها اینجا پیدا شده یعنی اتفاقی نبوده، برحال یک شبه همین اتفاق نیفتاده و به همین دلیل این نوع مسائلی که پیش میاد وقتی تعدادش زیاد بشه، از یک نو بشه پیامی که برای افراد دیگه خواهد داشت، برای کسانی که شاید این آمادگی رو داشته باشن، دوست داشته باشن با این بچه ها یواشواش یه ذهنیت میتونه اثر وجذار منفی رو داشته باشن که یه مقدار بقول به خود جای حالا سکند رو داشت داشته باشن قبل از اینکه بخوان دانشوی رو بگیرن روش برای طعموق دیگه‌ای بکنن ضمن اینکه ما مال بعضی از کشورها رو الان داریم یعنی وقتی که بر حال از اون حالا نوع کشور خاص وقتی دانشوی بخواد بیاد زمین که شاید دانشجوی دانشوی واقعا خوبی هم حسش ولی تا اسم اون مجموعه میاد یه مقدار تعمق میکنه طرف که ببینم حالا داشته باشم آیا آپشن دیگه دارم من انتخاب بکنم یعنی اینو مسئله کلی هست جمع کردن اعتبار سالها طول میکشه اثر گذاشتن روی اون و حالا یه مقدار شاید از بین بردنش خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته به خصوص اینکه مسائل ای هم حالا تو جامعه اتفاق افتاده و شرایط سیاسی هم به اون اضافه شده، مسائلی که بین‌المللی هم روی این قضیه اتفاق افتاده، باز این هم اثر گذاشته که یه مقدار بیشتر و سریتر این مسئله رو حد اغلب پیرامونون ببره. قطعا شما هم در جریان هستی که دانشگاه مختلفی حالا بعضی دانشگاه راه خیلی ساده رو پیشه کردن و متأسفانه من می بینم که چند تا دانشگاه اعلام کردن که فعلا مثلا از این جامعه ما فعلا دانشو نمیگیریم. به دلیل این نمیگیریم که مراحلی که باید طی بشه و اون شرایطی که قانون گذاشته باید رایت بشه برحال شاید سختتر از اینه که ما بخوایم مثلا نگیریم یعنی که بهتر نگیریم دانشو و وارد واردو مقوله نشیم. و متاسفانه این را الان داریم میشنبیم و میبینیم تو برزه دانشگاه تو ویکتوریا هم هستن و همین نفت دارن اجرا میکنن. خوشبختان دانشگاه مربون تو این قاعده نیستش و دانشگاه مربون همچنان مسیر گرفتن دانشجوها رو برای بچه ایرانی داره ولی خب برحال یه سری قوانم مقرراتی رو دولت درخواست کرده همه دانشگاه باید موظفا رایت بکنن که یه مقدار مسیر رو طولانی تر کرده و از دیروز هم حالا متاسفانه از دیروز هم شروع کردن حالا بحث حالا بحث فقط دانشجوی از پریروز دانش دانشوایی که میخوان تازه بیان مطرح بود ولی الان دانشجوی که الان هستن مطرح یعنی الان دانشجویان که حسن هم برای هر دانشجویان برای ما الان فرم برای برای یعنی سوپروایزوره مربوطه آمده که حالا بعد اینا رو پر بکنن و طبق همون رویالی که برای بقیه بچه هستن این هم بر حال رایت بشه که این بچه ها اولا رو چی کار میکنن رو چه شرایطی هستن و حال رایت اون مواردی که نباید کار بشه و مسئله باشن باید انجام بگیره حال این نوع موارد میتونه توامن حالا کمک بکنه اگر مورد خاصی هم برای دانشو پیش میادش یه مقدار دچار اشکال بیشتر بکنه در کنار این موضوع مشکلات مالی و ارزی که اون هم حال گریبانگیر همه شده و اتفاقی که برحال باعثش خب هیچ کس نیست یعنی من واقعا هایی که با یه برامه ریزی آمدن اینجا برای ادامه تحصیل بعد یه دفعه مشکلات براشون پیش آمده و اونایی که به خصوص حالا با حزینهای حتی شخصی آمدن اینجا و خانواده هاشون برامه ریزی رو داشتن یه دفعه با شرایط اقتصادی خب تمام معادلات رو دوچار اشکال میکنه که حالا یک ریزی که فرزن برای, یک مورد خاص برای یه محدود زمانی سه سال چهار ساله بوده یه دفعه با این شرایط خب یکی یک دو سالش بخواد تحت تاثیر قرار بگیره شرایط اخیری هم که روی بحث ویزا و موارد مختلفی که خب دانشگاه با بخش حالا ایمیگریشن استرالیا هماهنگ کردش و اعلام کرد که دانشگاه میتونن از اون شرایط استفاده بکنن که حال این هم متاسفانه یه از بچه که حالا من باشون روبرو بودم و آمدن و مشکلاتگیر داشتم مطرح کردم و واقعا جای بر حال مشک گررانی هست و حالا من اینجا عرض میکنم اگر کسی هست اگر مشکل خاصی داره با کمال میل خوشحال میشیم خدمتشون باشه اگر بشه کاری کرد براشون اگر بشه شرایطی رو برها مهیا کرد و بر حال از این دغدقه فکریش مقدار کاسته بشه به عنوان یک حال همکار علمی با شما ما هم خوشحال میشیم که یک نقش بسیار کچی که تو این قالب داشته باشیم موضوع اصلی که عرض کردم توی مجموعه افراد حالا پیدا کردم و حالا پترن های مختلفی که حالا آره بوده و کنار را هم میگذاریم میبینیمشون اون ارتباط از اولی هستش که دانشجو شروع میخواد بکنه درسش رو با یک سوپروایزر و نحوه تعاملش با اون سوپروایزر تا انتهای کاری که کار موفق تموم بشه بره جلو همین اسکول حالا خواستی بر بیرون چک بکنید یه دونه داکومنتی رو داشتن قبلا میدادن که استپای مختلف توی مسیر است حالا این تحقیق رو به عنوان یک گایدلاین ارایی داده بود خیلی یک دایگرام خیلی ساده ای بودش که خیلی کمک میکرد یه سری استفایی رو داشت که شاید بد نیست بعضی وقات این رو مرور آدم بکنه که حالا کجا هست چه رختی هست داره انجام میگیره شاید به نظر خیلی ساده بیادش این شکل ولی خیلی مفیده خیلی جواب میتونه راحت اگر احتمالا یه موقع مسیر آدم یه مقدار داره خارج میشه دوباره برش کردن سر جاش بتونه یعنی تو مسیر اصلیش بیاره ببره جلو اون رو یه سری استراتیجی های شاید خیلی ساده هست یا خیلی حالا از طرفی هم اسینشیال هستش که رایت بشه در تعاملی که با سپروائزرامون یعنی داریمشون یکی از شاید ساده ترین از همون روز اولی که شما الان تحقیق رو شروع میکنید در دوستانی که الان وسط کار تحقیقشون هستن یا روبه اتمام هستن یا سال اول هستن ما یه نکته دیگه که عرض کنم اینه که دانشگاه بسیار الان رو بحث این که دانشجویی رو اگر احتمال میدیدین نتونه درس رو تا آخر بره تو همون سال اول این رو تا میتونید بر هر حال همونجا تست رو بزنید و قبل از اینکه که کانف یعنی در کانفرمیشن یکی از جا گلوگاه هایی که شاید بیشتر الان داره یعنی قبلا به این فرم نبود الان بیشتر داره حساسیت رو به دلیل اینکه ارزیابی خروجی دانشگاه ها رو هم دولت فدرال روی اون بحث انجام میده اگر دانشجوی کانفرم نشه عملا جزء اون دانشگاه نظر پوانه که به دانشگاه داده میشه حساب نمیشه یعنی تون سال اول ولی اگر دانشوی کانفرم شد رفت جلو و بعد تو طول مسیر ادامه تحصیلش نتونست کار رو انجام بده و در بازه زمانی که داره پنج سال برای بحث دکتران مکسیموم وقتی هستش که میدن که همه کار تموم شده باشه گراجوهی تم شده باشه یک روز از این پنج سال بگذره شروع میشه به های منفی گرفتن و, و قبلا دولت فدرال پرداخته که به دانشگاه داشتش، در ورود تعداد دانشجو بود یعنی دانشجو به مجردی که ثبت نام میکرد ساپورتی که از دلار فدرال آمریکا می‌آمد برداخ می‌شد ولی الان تقریباً 5 6 ساله که این شرط عوض شده به خروجی دانشگاه داده میشه یعنی به تعداد دانشجویی که در اون بازه زمانی تموم میکنن بر مبنای اون پرداخت میشه اگه دانشجوی رفت 5 سال گذشت تمام محدود زمانیش عملا دانشگاه نه تنها چیزی بهش پرداخت نمیشه بلکه از همون روزی که به خارج میشه شروع بر بکنه به پرداخت کردن جریمه از رو پرداخته دیگه که داره یعنی یه مقدار شره و برش همخواانه منفی که بر حال برای دانشگاه ها میتونونه خورده بشه روی حساب که بحث اینه که اگر قرار دانشجویی رو می‌بینید واقعا امکانه احساس می‌کنید توانای علمی کافی رو نداره در همون مقطعه به قول معروف کانفرمیشن اونجا بتونیم برها داشته جلوش رو گرفته بشه حالا به عنوان بیس پرکتیس 6 ماه بحث ادوایزری پنل باید تشکیل بشه اضافه بر چیزی که حالا نشستایی که با سوپروایزر به صورت ریگولار باید شکل بگیره از طرفی هم حالا اسکول انجینیرینگ دو تا سابجکت رو هم که عملا به عنوان قبلا ما ها مثلا هر کسی به صورت تنها مثلا خوب ارائه میداد یا میگو مثلا این دانشجو منم برن این سابجکت ها رو بگذرونن بیان حالا یا حتما باید بگذرونن یا برای اینکه که به تحقیقشون کمک بکنه ولی از سال 2013 دیگه به عنوان یک موضوع اجباری دانشجو باید دو تا سابجکت رو قبل از کانفرم شدنشون بگذرونن و نمره پس رو ازش بگیرن و بعد بتونن کانفرم بکنن اینم از شرایط جدیدی استش که گذاشته شده زبان رو هم باز اضافه شدهش و زبانم از شیشونین به هفت انتقال پیدا کرده یعنی شرایطی که الان دانشجوهای جدیدی که گرفته میشه خب حالا با این مسئله که ارز کردم این که واقعا تعدادی که اخیراً مشکلات که ایجاد شده براشون نگاه میکنیم امدتا به همین نشست شاید این تعاملی با سپرو وایزرشون بوده شاید شما هم با دوستان مختلفی روبروش شدید که با شما هم آمدن من مشکلاتشون رو مطرح کردم و بعد حال با شاید دیتیل موضوع بهتر آشنا شدی. هر کدوممونم از یه زاویه دید مطرح میکنیم یعنی حال اگر مشکلی برای من پیدا بشه حالا اونطور که من ارائه میدم نه اینکه خلاف اون واقعیتی هست که باشه ولی میتونه به حال از دید طرف مقابلتون چیز دیگه‌ای اتفاق افتاده باشه و عمدتاً هم همین جا هستش که این دو تا فرهنگه و شاید فکر می‌کردیم که جفتمون یعنی هم دانشجو هم سوپروایزر روی یه صفحه بقول اینجا همسران هم سیم پیج بودن ولی عملا نبودن دوتا موضوع یعنی دو تا, تا مطلب مختلف داشتن می‌گرفتن کلماتی که شاید یکیشون به کار برده اون یکی فکر کرده که من دقیقاً همونه من دانشجوی بوده که اومده میگه من همه چی اصلا با سوپروایزرم اصلا جالب بود من با یکی روبرو شدم این از از سوال کردم که اوزای درسیش به چه صورت که همه چی خیلی عالیه اصلا یعنی با سوپروایزرم من اصلا به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تیمم تیمم میشناسه و همه چی عالیه داره میره من تا یه مقدار باز بیشتر که سوال کردم خب آها کانفرمیشن به کجاست که اونم الحمدلله انجامش دادم انجام دادم خب تمام شدش کارونم تموم شد خوبم رفت جلو خب پس یه تموم شد حالا من چون احتمال دادم تو صحبتاش یه مقدار صحبتی که درش میکرد یه مقدار یکی دوتا نکاتی بود که یه مقدار من را شک که گوتم این که میگه تموم شد دیگه اونو زدن و امضا کرد رفته تحویل دادید و اینا چیزی کامنتی چیزی هم ننوشن گفت نه هست کوچولو بعد گفتنم سه ماه دیگه برام دوباره یه پرپوزال دیگه گفتن یه ذره چیزش بکن ولی نه تموم شد گفتم نه میشه بیا با هم یه مقدار بیشتر صحبت کنیم شاید یه مقدار این جدی‌تر از اون موضوعی که فکر می‌کنی بعد از اینکه یه ذره صحبت کردیم بنده خدا واقعا نمی‌الا گفتم مم... مم... مم... مم... مثلا اینطوری نگاش نکرده بود به من گفتن که خیلی کار تو چون بالاست به نظر ما بیا اصلا تو مستر تمومش بکن الان و بعد بیا یه تاپیک دیگه بریم برای دکترا نه این موضوع اینه که شما رو کانفرم نکردند یعنی بعد که دقیقا همینه یعنی کانفرم نشده دانشو رو کشوندنش به اینکه یه فرصت سماهی بهش دادن برو برها ریوایز بکن بردا بیار و بعد بیا چیز بکن که بعد گفتم خب حالا میشه توی این یک سال و بگی چرختی با این سوپروایزر چطوری تا امروز مثلا متوجه این داستان نشدی که واقعا کارت با سوپروایزر درست میرفت جلو گفتم من هر وقت صحبت می‌کردم باهاشو مثلا جلسه ریگولار داری باشون بله چیزی هم داکومنت کردی نه اصلا تولای یعنی با تو سوپروایزر تعاملی با هم داشتید و اینا یارو من همیشه مثلا جلسه خیلی خوب بوده میام چیزی هم یعنی اصلا با هم هیچ چیزی توافق نکردی ایمیلی نزدی ایمیلی از اون نگرفتی تو جلسه رفتید مثلا چیزی یادداشت نکردید هارد که بهش دادی یه چیزی نه هیچی نبوده همه چی خوب بوده. حتی من کانفرمیشن هم نوشتم اسوبرایزرم گفتم بدم گفت نه اینکه من که اینطوری نمیخونند این امتحان تو بیا تو جلسه و بیا امتحان بدی معنیو یعنی اصلا یه دفع شرایط این دفعه رو میدیدی کمپلت ادیده این دوستمون مثلا خیلی شرایط بسیار خوبه با سوپروایزرش داشته ولی یه دفعه رسیده به جایی که کانفرمش نکردن تازه بهش پیشنهاده مثلا تبدیل به مستر دادن و اینکه آقا بیا حالا اگرم نشه سن اخراجم بشه یعنی به این نف رفته ولی اصلا داستان رو متوجه نشده تا این قالب ولی خب دوستان دیگه‌ای هم بودن که باز به همین نف مشکلی رو داشته که همه چی خوب با سوپروایزر هم رفته همه چی حسنه بوده و اصلا های بسیار خوبی داشتم ولی یه دفعه امروز سوپروایزر نمیدونم چه شده اومده اصلا میگه تو اصلا پیشرفت نداری تو اینطوری که اتفاق حالا میتونه آدم یکی به حال مشکلی یه دفعه ذهنی پیدا بکنه یه همچین چیزی نمیتونه من میگم اصلا نیست ولی اینکه مثلا فکر کنی یک سال با اصلا سوپروایزر شما تعامل داشتی فکر میکردی همه چی خوبه و باز با همین دوست جدیدمونم هم صحبت میکنم، نه هیچ چی نشده هیچ چیزی نشده بین اینها و همه چی خوب بود هر وقت صحبت کردی همه چی عالی بود و هیچ چیز فیدبکی نداده و به این قالب رفته و امروز اومده به من میگه اصلا تو امکان ادامه تحصیل رو نداری تو اصلا پیشرفت نداشتی ما اصلا راضی از نیستیم و باید حتما این جلوی درست گرفته بشه مشابه این چند مورد دیگه هم هست که شی با همین منوال الان پیش آمده چیزی که گفتم شاید بد نیستش که از دید حالا شاید از چش مهاب مثلا مام که منم خب اینا شما شاید ده سال پیش در 12 سال پیش همین شرایط شما رو داشتم تو این قالب و به حال ممتا شاید از یه قالب دیگری شاید به دلیلش هر یه مقدار تجربه اجرایی کاری بیرون یه مقدار تعاملاتمون با سوپروایزر متفاوت بوده ولی چیزی که من گفتم امروز با همدیگه مرورش بکنیم که قطعا شما هم شاید خیلیاتون اونها رو رایت دارید میکنید که خوبه اگر این اتفاق بیفته یا اضافه بر اینم اگر نکاتی هست حتما مطرعش بکنید که حداقل همه در جریان باشن یک بسیار مهم اینه که از همون روز اول روابطتون با اون سپروائزرتون رو بتونیدش داکومنت بکنید حالا این داکومنتیشن تو هر جلسه ای که باشون میری این داکومنتیشن به مختلف میتونی شکل بگیره یه جا از شما میخوان داکومنتش بکنی یه جا هم از شما نمیخوان ولی شما داکومنتش بکنی شما که از جلسه میاد بیارن اگر سپروائزرتون هم pileh ela داکومنتیشن نیست، با توجه به این مشکلاتی که دیدیم من فکر می‌کنم خیلی مناسبه که این داکومنتیشن اتفاق بیفته. حالا برای چه اتفاق بیفته؟ برای اینکه اگر یک روز رسید به جایی که خدای نکرده مشکل اساسی پیدا شد قرار شده حالا برای کمیته تشکیل بشه، بررسی بکنه وضعیت رو مشک چیزی باشه اونجا، حالا بحثم محکمه پسند بودن این شرایطی که ما مطرح می‌کنیم باشه. اینکه حالا من اینطوری فکر کردم، سوپروایزر هم اینطوری به یا این چیزا باشه. اگر اینا داکومنت بشه راحت تر میشه اینها رو استناد کرد بهشون حالا اینم خیلی کار ساده ایه. یعنی اگر شما که با سوپروایزر جلسه دارید حتما تو جلسه که میخواد برید د به صورت دات هم که شده چند نکاتی که حالا قرار باش صحبت بکنید قرار نکاتی که حالا پیشرفت کردید رو بگید اینو آماده بکنید ببرید که کپی هم برای اون طرف ببرید که روی اون بتونید بس انجام بدید که آقا من این چارت موضوع انجام دادم این موارد رفتم جلو حالا اگه سوپروایزر به شما بگه کاملا هم خوبه همه اینا پیشرفت هم پیش درسته بعد از این جلسه میای بیرون یه ایمیل کوچولو اگه بهش بزنید به ضمن تشکر از اینکه جلسه حالا خوبی بوده بودش و اینکه کانفرم کردید موارد پیشرفتی که داشتیم و با توجه به صحبت که اومد من حالا میرم روی این موارد بعدی کار می‌کنم اگر سوپروایزر به شما جوابی داد که نه سب کمنی مثلا کی گفت شما حالا من گفت تایید کردم کاراتو این یعنی اگر موردی رو بگه همونجا دیالوگ میتونه باز بشه ولی اگر نه 4 که دیگه برای بنده اینطوری بیا جلو منم اینجوری نزنم خب عملا یعنی تاییدش کردم این مورد حالا یه بارشو میس میکنم دو بارشو میس میکنم برای دیگه 14 دفعه رو نمیتونم ادعا بکنم که ندیدمش یا به این فرم نبوده اصلا اینطوری نیستش که از اول چون یه طرف داسان صحبت دوستان رو آدم میشته من حالا کسایی که حالا دوستانی که بودن با سوپروایزرهای مقابلشون صحبت میکنم میبینم که شرایط متفاوته یعنی یک جوری دیگه هم اون داستان. داسان هست ولی اونور داسان یه مقدار داکمینتیشنشو بیشتر کرده یبردار موارد داره به این دلایل ما این کیس خاص مثلا نمیتونه کیس مثلا چیزی باشه و بعد این وسط کارو مشکل می سازه چون نگاه میکنم اینا اولا دو تا فضای مختلف این دو نفر داشتن با هم تعامل میکردن تو یک صفحه نبودن از روز اول تو یک صفحه نبودن و از طرفی کردم دانشگاه خیلی خوب پشت دانشو هستش یعنی دانشگاه توی بحث هاشتن تو جلساتش حتی کمیته ای که تشکیل میده که بعدا بخواد بررسی بکنه برمیگرده به اینکه ها داکومنت شده یا نه یعنی. بیارید ببینیم به چه صورته و به هر حق رو واقعا به اون جایی که باید داده بشه میدن یعنی به اون نفری که اسم قطعا به, به این نفره است و اصالتا دنبال این نیستن که مثلا فرض کنید دانشجو بعد حتما برای سرش در بیاریمشون مثلا یه حق حقو حتما با یعنی در درجه اول و آخر سوپروایزر حق میگه به هیچ وجه اینطور نیست یعنی ما کیس های مختلفی حالا بنده به عنوان مسئول دپارتمان دارم میبینم کیس های مختلفی که برای بچه های مختلف، نه فقط بچه های حالا ایرانیم و بچه های کشورهای دیگه کیس رو یا حتی تو آکادمی بورد دانشگاه که اونجا هم خب ما هر ما جلساتی که هستش و کیس که بیارن مطرح میکنن می‌بینیم که به چه نحوی سوپر مثلا فرض کنید حق با اون نبوده و حق با دانشو بوده و حق رو به دانشو داده شده و ادامه دادن یعنی این نیستش که واقعا اینطوری باشه که نه حق با سوپروایزره چون برای سوپروایزره ایشون نه به این فرم نیست و تازه رکورد بسیار منفی هم برای موپ بازر خواهد گذاشت اگر این نوع مسئله درست درستمن نکرده باشه تو این داستان. روی حسابه که ما اگر فقط بتونیم موارد خودمون رو درست ببریم جلو یعنی بحث داکومنتیشن مینت جلسه که مینت هم لازم نیست به دیتیل باشه همون چهار داد پایین رو با ایمیل هم رد و بدل بکنید و تاریخ داشته باشه برای خودتون سیبش بکنید. این, این میتونونهشادم هیچ وقتم. لازم نباشه اصلا اونا ریفر بکنیم ولی حداقل به بکاپی هستش که اجازه این کیسا اگر چیزی شد بتونه آدم راحت برگرده به عقب و حالا داستان رو بتونه راحت ببینهتش و هر کسی هم میتونه به قول معروف معکن پسند هستش میتونه راحت اون رو مرور بکنه حق رو مشخص کنه به چه صورت بوده نکته بعدیش ریگولار کامینیکیشن با وایزرتون است دوستان مختلفی رو من میبینم میگه مثلا میگم جلسه به چه صورت هر چند وقتی با سوپروایزر داری مثلا میگه حالا ماهی یک دارم یا گفته هر وقت سوالداری بی بکن اما ها یا تو جلسات همینطور هم دیگه رو میبینیمشو بینیمشون همهبی نداره. این هم باز میتونی شما دررائبش بکنید. هر هفته برای سوپوایزیر روتون یه ایمیل بزنید. حالا زمین که تو راه میبینید بینیدشون تو جلسات مفرانهه یه سوپ بهش یه ایمیل بزنید پیشرفت کارتون رو بگید من دارم این کارا رو انجام میدم تو این زمین هم رفتم جلو و این مسائللم هست. دنبال نباید دنبال نتیجه باشید ازش. یعنی یه جوری براش بنویسی یالا این به احساس نمواد ولی براش بفرستی ریگولارلی آپدیتش بکنید نمیتونی سوپروایزر بعداً برگره بگی که مثلا نمیدونم این داره دانشو چیکار میکنه ما ها گذشته خبر ازش ندارم تو این داستان. چون داشتیم کیسایی که به همین نفع اتفاق افتاده و دانش چون فکر میکرد همه چی خوبه میگه ما همش تو راه رو هم دیگه نمیدیدیم خیلی هم به هر همیشه رفتارمون مثلا خیلی هپی بود همیشه میخندید یعنی هیچ وقت من ولی اخیرا مثلا واقعا با مشکلات چیز جدی باش روبرو رو شدم و اینا ولی اگر با ایمیل زده بشه که فقط آپدیتش بکنین خیلی هم خلاصه که فقط دوست دارم که شما در جریان باشه این هفته من این کارا رو کردم پیش رفتم اینطوری بوده معمولا هست ولی واجبه خب یه ریپلای اگه به شما بکنه تعیید بکنه که نه خیلی خوب و عمال ساحب همینش کافیه که بعدا اگه این موقع موردی پیش پیش آمد تا از این رو دم بذار رو میز بگیم من هر حال این چهارتا بوده یا الان میگه اصلا من پیش لفت نداشتم کجای داستان مشکل داره مسئله بعدی این که غیر از سپروائزرتون افراد دیگه تو فیلتون رو باید پیدا بکنید فقط به فقط متکی به سپروائزر شدن کافی نیست که آقا من ادعا با با رفتم تا روز آخر بعد حالا اومدیم نوشتیم بعد الان میگن که اصلا کارت اصلا درست نیست قطعا تو اون رویهتون تاپیکی که شما شروع میکنی به کار که یک نفریه که بتونه دایرکت بکنه ریسرچ رو یه ذره که شما شروع می‌کنی به دیتل وارد شدن موضوع شما بیشتر از سوپروایزر تو اون قایده خایتون و این ریسرچه یعنی این نیچر ریسرچه اگر قرار باشه تاپیکی رو ما تا آخر داستان است بدونیم چی قراره بیاد بیرون با چه خصوصیات با چه دیزاینی ریسرچ نیستش یعنی این ریسرچ قراره یه چیزی رو برای کانتریبیوشن تو نالرج باشه نه ایجاد بکنیمش توش منتها برای این مقوله اتفاق بیفته خب سوپروایزر با توجه به تجربهش و کانتکس بی بالاتری که داره میتونه دایرکت بکنه که زیادی یرافه چون تو ریسرش خیلی راحت هم آدم میتونه از یه قسمتش شروع بکنه به یه جای دیگه خط بشه و عملا یک فضای دیگه ای رو دستش برسه که اون رو میتونه سوپروایزر کنترلش بکنه که همیشه برگردیم به اون ریسرش پرابلمی که داشتیم واقعا پرابلم کجاست؟ دوبال چی هستیم؟ چی رو داریم حلش می‌کنیم؟ خیلی وقت‌ها بوده که خیلی کارا کردیم تو ریسرچ، خیلی خروجی‌ها هم دادیم، مقاله هم زیاد دادیم. ولی آخرین روز از هم می‌پرسن پرابلم چی بوده؟ حلش کردیم یا نمی‌دونم پرابلم اصلا کجا بوده؟ خیلی کارا کردم، این این این انجام دادم. خب همه اینا کانتریبیوت تو چی می‌کنه؟ موقعی که می‌خواد جمع بشه تزه اونجا به مشکلات بر میخوره که جمع شدن اینا کنار هم یعنی اون پازل درست جمع نمیشه چون خیلی کارهای خوب اتفاق افتاده ده تا دا مقاله دادیم کیس داشتیم ده تا دا مقاله خوبم داشته ولی به هیچ وجه نتونسته بود که تزش رو بزنه سر هم آخر داستان تزه یک الانکارس کردم واقعا یه جرنی هستش از روز اولی که شما شروع میکنه تو شکل تو ذهنتون شروع میکنه لحظه به لحظه موارد رو میسازید و چیزی که آخرست شما تو زینتون میبینیدش و بعد اینا مپ بشه مورد بعد این که حتما افرادی که تو فیلد شما هستن که قطعا با خوندن مقالات مختلفی که شروع میکنید و تو اون کانتکس می‌رید پیداشون میکنید اینترنشنالی حالا چه نشنال چه اینترنشنال چه در حوزه‌ای که هستید با اونها در ارتباطتون رو برقرار بکنید به حال هم مقالاتشون بخونید تماسی داشته باشید کنفرانس نشست یه موقع ویزیتوری تو دپارتمانتون دارید حتما باهاش برید صحبت بکنید یک برگه در حد یک صفحه بیشترم نه به صورت دات پوینت یکی تاپیکتون رو ریسیر پرابلمتون رو یکی که زمینه که حالا درید الان روش کار کردید یا دلیور کردی رو داشته باشید با اونا بتونید تعامل کنید مطرح کردن این موضوع با یک اکسپرت یک کمکی که به شما میکنه هر باری که اینو میایید مطرحه کنی روش فکر میکنید برای خودتونم مسرجر میشه که اگر موردش واقعا به هم میخوره یا اصلا داستانه با هم میخوره یا نمیخوره اینکه بتونید داستان سر هم بکنید تهش حقیقتشو بخواد آخر کار شما تیزو برای دو نفر مینویسید دو نفری که قرار استسش بکنن اگر این داستانی که سر تیزه به هم میزنید داستانی باشه که به هم بخوره عشق طرفو در بیاره کافیه خوبه یعنی به کاف خورده و اومده ولی اگه طرف نشسته داره تیزو میخونه شروع میکنه به خوندن میبینه که نه اینا به هم وصل میشه چون کسی که تو کانتکست کار شما نبوده نباید اصلا مرتبط به رشته شما به تحقیق شما بوده باشه نباید با سوپروایزر شما اینتراکشن تو این یا پابلیکیشن مشترک داشته باشه اینا کاندیشناییه که باید یک اکزامینر داشته باشه 5 سال گذشتهش نه سوپروایزر شما نه شما باید با اون طرف اینتراکشن یا نظر پابلیکیشن جوین یا این کانفلیکت اف اینترست ایجاد بشه نباید باشه خب این طرفی مقاله گرفتیم. گرفتم. شما میتونید این دایرکتی با اینهات یعنی با اونایی که فکر می‌کنه احتمال داره اینا تو فیلتون بشن ازمینه رتون. خب بر هر حال این موقع کنفرانسی از جایی هست می‌بینیدشون. باهاشون کارتون رو مطرح کنید. ریگولاری آپدیتش بکنید اگه علاقه من بودن. برای بودن با خود ما مثلا بارها بوده جلسات یه جای مثلا دیدن دانشوی موضوعی گفته مرتبط بوده. آدم علاقه داره بعدش هم میگه اگه موردی مشکلی بود مثلا مطرح کنه. بدون که با هم پابلییکیشنی داشته باشید ولی بعداً که شدیم اگزمینر اون موضوع آدم بهتر موضوع رو می‌شناسه منتهی ها اینکه شما افراد دیگر رو پیدا بکنید با اونا هم تعامل داشته باشید که اون تزی که می‌نویسید اون اگزمینری که داره میخونه واقعا سر و تش رو با هم ببینتش به هم ببینه خورده من هفته پیش دو تا تزه دو تا دانشگاه دیگر رو داشتم تأیید می‌کردم یکی از این موضوعات یعنی تقریباً دو ماه وقت منو گرفته دوبارم خوندمش که هر چقدام میخواد fair باشی تو این داستان ولی وقتی هر چی میزنی کنار همدیگه بینی از توش تیز در نمیاد بیرون حدود 300 صفحه هم تر درم یعنی نگاه می کنی میبینی که مواردی که زده خیلی مطالب خلاق خوبی در قالب خودش تک تک بوده ولی به هیچ وجه این داستان اصلا سر هم نمیشه یعنی هر جور میزنی چیز نیست شو اینا خب حالا این همون چیزی پیش میاد برای نفر بعدی هم همینطوره وقتی تزه رو میذاریم دیگه من نمیتونم ببینمش اونجاست که کافیه که یعنی خود شما آتور رو به اون دسته اگزمینر بده از همون اول مشکلاتی که میتونه تو نوشتن باشه به هر حال یعنی نوشتن یه قسمت داستانه این که به هم دیگه واقعا وس بشه یه بحث دیگه داستانه که اون دیزاینه که شما تو طول چند سال به حال بهش میرسید. مطلب دیگهش، اش به هر حال اینکه با سوپروایز خیلی از با افراد دیگه هم خود کارتون رو چک بکنید چه با فلوهای دانشجوی دیگه‌ای که داری چه با افرادی که اکسپرت هستن تو فیلدتون مطرح بکنید و خیلی هم اوپن باشید به اینکه اگر فیدبک های بسیار منفی و هارد گرفتید این اصلاً دیسپوین نشید به این موضوع یه نکته دیگه هم که هست تو تحقیق معمولاً یه مقدار که آدم میره جلو خیلی چیزا بدیهی میشه برادر خیلی به نظرش پیش ها افتاده میادش خیلی چیزهایی که داره در میانه اینه که با ایفاره به این تز مثلا هم پرسند دکتور به این بحث اینا به دلیلی که زیاد باش رو شدید اینطور طورش دیده بشه و یه نکته دیگه همی که یه جاهایی یه سری باطنک بهش گیر میکنید که میکنه. از میکنه می‌کنه از ریسارچتون بدتون میاد اصلا شاید این دفعه به سوی بسوی تفاهمش از این تاپیک تاپیکی که من شاید نبوده دوستش ندارم اصلا این نیست دارم با زور می‌برمش چرا مثلا روز اول مثلا یه چیزی که تو ذهنم بود حالا این سوپروایزری که مثلا باشن شستم این اومد من رو هی گو برو روی این کار کن روی این کار کن مثلا اینو نیست یعنی چه علاقتی یاد بگیرید که از بد اومدن از تزتون حالا بقول جای میگن لاف داشته باشید بهش یعنی مثلا این،, این موضوع شما رو گیواب نکنه یعنی به این که خالب... یعنی نذارید این شما رو پادر بیاره تش این جزء نیچر ریسرچه یعنی این موضوعی نیستش که برای شما اتفاق افتاده باشه یه نکته دیگه هم که یه ذر آدم شروع میکنه بعد از یه مدد احساس میکنه که اه... من... چیز هستشه برمیگردی نکته اون پریدش ولی در هر صورت اینکه از تاپیک یعنی تاپیک مال شماست اونرش باید باشید بعد از یه مدت که کار شروع کردید حالا تاپیک اگه سپروائزه معرفی کرده اگر خودتون از یه جا آمدید بعد از یه مدت کنید شما باید اونر تاپیک باشید شما باید اکسایت بکنید طرف مقابلتون در ارتباط با اون تاپیک نباید بگید، حالا من اینا تا اینجا شما گفتید، اینا کار کن، اینا رفتم تا اینجا کار کردم، ولی خب، حالا به چه صورته؟ موقعی که میخواد ارائهش بدید تو هر قالبی که هست، و حتی دوست هم آتاقیتون میخواید تابیک رو ارائه بدید، طور ارائه بدید که ایک سایتش بکنید اون رو. حال داستان رو باید سره هم طوری بزنید که اکساید بشه درم یعنی اگه قرار باشه هم خودتون اکساید میشین نسبه به موضوعی که کار کردید و به هیچ وجه هم دست کم نگیرید کاری که کردید یعنی اچیومنتی که داری اچیومنت بسیار بالایی هستش و این رو دست کم نگیرید ولی نحوه ارای دادن تعامل شما میتونه برها محب چیز کنه اون طرف رو هم به حال آماده بکنید به چه صورت به تاپیک شما نگاه کنه. اگه من تاپیک رو درست سر یعنی داستانی که میخوام بسازم و تعامل بکنم با نفر مقابلم اگه درست نباشه، خود ما هستیم که داریم بهش این اشکالات رو بهش میدیم که از اینجا وارد بشه. و ضمن اینکه این تاپیک مال شماست و این کارو کردم بر حال صاحب و قبول بکنید مال شماست. منتها بسیارم باز باشه به اینکه اگر بر حال فیدبکی دادن یا حتی به دلیل ندونستن چه امکان داره شما چون کان به صورت کان یعنی کانتکس اون کار رو دارید می بینید همه رو ولی نحوهی دارید ارائه می امکان داره یه سری اس snapپشاتهایی باشه که دا میدونون طرف چون همه قسمت رو نمی بینه درست شاید موضوعور نگیره و دفعه شما رو چنج کنه تو این قاله. حالا یکی چنج خیلی محترمانه و خیلی شاید با چیز باشه، یک کمینی چالنج دفعه خیلی سخت می کنه. ما داشتیم تو دپارتمان خودمون بچه‌ای که مثلا فرض کنید طرف اومده خیلی روک برگشت بهش گفته از مت اون فرد همکار خاصمون اینطوری ای که خیلی رُک مثلا فرض میگه که مثلا این همش ببخشید اینا مثلا فرض کنید رابیش هست اصلا داره میگی اصلاً نباید این رو نگرانش شو اگر واقعاً کامفیدنت هستی نسبت به موضوعتون راه تعاملش رو, رو پیدا بکنید تعاملش رو از یه مسیر دیگه واش مطرح بکنین. خوبه بشنوید بی نداره به اگر به نظر شما میریم موضوعی که من کار کردم اصلا موضوع مکسنس سنس نمیکنه اصلا این سالید نیست اصلا این ساینس نیست هیچ اشکال نداره حالا از کجا شما این رو نمیبینید چه چیزی رو شما فکر میکنید به چه دلیلی میگی اینطوریه بذار بشنو ببینیم کجای داستان هستش که شاید بهتر بتونه کمکمون بکنه مطلب بعدیش پابلش کردن کارتونه ما دوستانمون دیدیم که رسیدن و آخر کارشون داره تیزشون میگه میگیم پابلیشش کردی میگه نه نخاست سوپروایزر گفته نه فقط کار کنم تو کار کنم برو جلو یکی از چیزایی که پابلیکیشن کمکم میکنه فیدبک هاست حالا کردن کردنم کار ساده ای نیست ولی پابلیشه اگر بره اونم توی ژورنال های اساسی بره کنفرانس پیپر و ریفری کنفرانس هم خیلی خوبه ولی جای جورنال پیپر رو نمیگیره به دلیل اینکه کریتیکالی اساس میشه فیدبک میدم، منفی چون خود بنده مثلا از دو از این ادیتورای ژورنال ها هستم می بینم که برها یکی از زاویه کارها این جورنالی یکی از رنکینگ‌هایی که می تعداد ریجکت کردن مقالات هم هست یعنی اینکه حالا مقاله شما ریجکت شده از سه تا جورنال دو تا جورنال زیاد نگران تو نکنه که آب از این تاپیک من به درد میخوره. یه سخته. باید چالش بکنی باید بیاری داخلش. ولی فیدبکایی که میاد خیلی میتونه سازنده باشه. فیدبکا ها فیدبکایی که کس دیگه یا امادین خونده حالا یه سری فیدبکا fair نیست می بینیم. ولی خوب آدم بشه ما آبی نداره اینجا واقعا فر نبوده و اینطور که میگه اینطوری نیست ولی یه قسمتش واقعا فیره می نگام میو نفره دیگه پیامی که شما تو مقاله داشی اینطوری که شما فکر می‌کردین ندیدتش توی کار نکته دیگه که هستش توی حالا دپارتمان میتینگ و موارد مختلفی که هست یا تو گروهتون و حالا اون با سوپروایزر اگه گروهی داره اگه فردی هستن حتما شرکت بشید روی سوشال لایف اون داینامیک تیمتون یا تو دپارتمانتون یا گروه بالاتری که دارید این هم بسیار مهمه اینکه ما بیایم توی یه جا در رو ببندیم بیشیم طرخ انجام بدیم تمام بشه بره یک بری کارمون رو انجام دادیمض که میتونه خیلی مشکلاتی هم برای خودش داشته باشه ولی اینکه بتونیم این ترک داشته باشیم با افراد مختلف ببینیم سمیارایی دپارتمان یا دانشگاه داره حتما بریم من اگر فرصت داشته باشم قطعا اگه سمیناری باشه که پیش ببرم اونجایی تا اینکه تاپیک مرتبتمون نباشه قتن یه سری درس‌های دیگه آدم می‌تونه بگیره نحوه ایجادها نحوه ارائه دادن نحوه شروع کردن نحوه جمع کردن حالا یه سری سمینار بعد آدم میره یه موقع که میرم میگم آقا این اصلا طرف چقدر بعد ارائه کرد چون نمونه‌های بهتری رو داشتید یه موقع میرید می‌بینی این سمینار خیلی خوبه بخصوص اگر یه موقع کسی ویزیتور دپارتمانتونه از یه دانشگاه دیگه اومده ارائه داره میده خیلی می‌تونه کمک کنه که میگم دائیم این های دیگر رو هم یاد بگیرید حالا به دو دلیل که که قراره تز خودتون رو برای جلویی که قرار فردا تو این جامعه کار کنید چه اینجا چه هر جای که هستید این نحوه ای ارائه دادن و موارد رو بهتر بهتون داشته باشید پس بنابراین شعر کردن موضوعتون داستانتون کی یه ذره برای رفاقت داره گیرش ووردی وای راجع به تزتون بهش بگید. تا میتونید ساپورتر برای تزتون پیدا بکنید. یعنی این نکته بسیار مهمیه که تو تزتون حتما چهار نفر رو پیدا بکنید تو افت فیلد خودتون و راجبه کارتون بهش بگیر یعنی به هر حال این نکته بسیار مهمه تو خونه تون هم میتونید برای یکی گیر بیارید راجبه تزه بگیر اصلا ببینید به هم سر هم میشه و بعد یه نکته هم که هستش ارتباط تزتون با جامعه با مشکلات جامعه این که بله سالید روی یه دارم کار میکنم که خیلی پیوری اینکه به هر حال بوروسکای تایپ ریسرچ اصلا به هیچ جورام به جامعه الان بر نمیگیره ما داریم ولی قطعا پیدا خواهید که niche کاری به جامعتون رو که بتونیدش مرتبطش کنید که بعدا هم اگه خاصی برید تو جامعه کار بکنید بتونید ارتباطشو ببینیدش مانیتور کردن پروگرس خودتون ریگولارلی یکی از چیزهایی که خیلی مفیده هر چند وقت یک بار روی یه برگ کاغذ ورد دارید پیشرفت کار خودتون برای خودتون بنویسید Problemبلمه رو بنویسید دوباره نگاش کنید ببینید واقعاً واقعا به میکنه. اون روزی که روز اولی که Problem من ترک کردیم و بعدش هم کانفرمیشن هم داشتیم خب این تغییر پیدا میکن در طول مسیر تحقیقتون و روز آخری که میخواید تز رو تحویل بدید واقعا آدم میشینیم فرمولیت میکنه پروبلمی که اونتیز که نوشم چه رختیم این چه مشکلی رو حلش کردم. ولی دائما این رو به قول معروف خودتون چکش بکنیدش. بنویسید و نوشتن خیلی مهمه چیزی که بنویسید تو یک صفحه پرابلمتون رو نشه باشید ابجکتیوا رو باشید و بعد اگر ریسپان کردید به این ابجکتیوا با چی ریسپان کردید خروجی هاتون چی بوده که حالا خروجی اون تو تونالج شماست لیستش بکنید ببینید واقعا میتونید لیست کنی آقا من این سه احساس میکنم کردم تو این داستان که بعد روی اون بتونید با اون نفری که میخواد صحبت کنید پیرامون اون بحث کنید یعنی اینا رو به اگر مشکلی رو حس کردید در حین تعاملتون با سوپروایزرتون از همون ابتدا رهاش نکنیدش که ولش بکنم اگر احساس کردید مشکلی یا به تو مشکل میاد این رو حتماً اگرم احساس میکنیم یه چیز بنفهمیدن برخلاف منظورش این بود یا این نبود با نفر دیگه ای که تو تیم هست یا جای کشو بشنسه تعامل کن بگید همچین چیزی شده من شاید کلچورالی نگرفتم این مسئله رو این منظورش چی بودش اینی که حتما از همون ابتدا سعی کنین برطرف بشه من این که کردم دائما داکیومنت کنه ایمیل بزنید هفته یک بار یه ایمیل خیلی خلاصه پیشرفت کارتون رو براش بفرستید خیلی میتونه کمک بکنه و از طرفیم یکی یک مسئله دیگه وقتی با سوپروایزرتون میری صحبت کنید تا میتونید حالا من چیزی که واقعا دیدم تو هم خی... تو همه ریسرچ ها میشه به کار دایاگرام شک کشیدن این یعنی اون ریسرچ اون موضوعات که میخوای مطرح کنید رو غیر از اینکه مینویسید اگه بتونید با شکل تعاملش کنید راحت تره باهاش بتونید موضوعات مختلف رو بیاریدش یعنی داستان تزتون رو با شکل بتونید ادامش بدید با طرفی هم که دارید چون یه دفعه مثلا من دیدم جلسه میگذاریم میارم می دانشو میادش مثلا چند سال ورش نوشته میاره تو همون موقع هم میارتش انتظارم از شما دارم اونجا فیدبک بگیره خب میوام این که اگه قبلن به فرسی حداقل بخونیم ولی غیر از اونم نمیشه یا باید حرف شما رو گوش بده یا باید این رو بخونه تا حداقل اسکن بکنه روشون دو کار رو با هم نمیتونه انجام بده اینه که هی hey, این نوشته اونم با فونت های مختلف مثلا فرض رو بریم جلو. این که اگر بتونیمش اون رو خلاصه بکنیم و بعد دایگرامی داشته باشیم نشون میده آمن این سه تا موضوع تحقیق کردم و اینجا قرار بوده روی این فکوس کنم فکوس کردم رفتم جلوتر این قسمت رو درآوردم این ایش بوده الان دارم روی این هایلایت کردم یعنی یه مداد رایش بکنیم به اون مسیر باز اون هم راحت میفهمه تو کجای کار قرار گرفته و میتونونه انجام بده. من ما میتونه توی اینترنت بزنید افراد مختلفی تو دنیا ریسرچشون رو شیر کردن حالا های مختلفی برای اینکه تعامل داشته باشید با نحوه تعاملتون با سوپروایزرتون یا نحوه تزنوشترتون و من دیشب داشتم سرچ میکردم زدم بالای 10000 تا سایت اومد بالا که خواهم خواستم ببینم آیا هست یا افراد بیشتر می که هر برای شیر کرده یه جوری مطالبشون بعد نیستی این موقع فرصت داشته نقاط خوبی میشه ازشون گرفت منطقه یکی از چیزهایی که حالا تو کارهای تحقیق ما هم هست و بیرون هم برایتی از همین موارد میبینیدش یه ده تا از حالا کلانی که تو این قالب هستش رو من عرض میکنم خدمتون یکی از همین بحثه که الان کردم اینکه اونر تاپیکتون باشید شما برحال میمتعله به شماست تز شماست. شما قرار دفاع بکنید ازش و مسلما اگر تز شما دو اشکال بشه و دو یعنی اگزمینر اون رو حالا فیل بکنه یا به هر حال میجری کرکشن بده برای سوپروایزر هم خب این سخت است ولی به هر حال در آخر تز شماس یعنی شما باید این رو کانفتیبل باشید که برداشته باشید یکم مطلب دیگه که هستش نوشتن رو از همون اول شروع کنید به نوشتن اینی تهیه زمین. بعضیم هم میگن کارم دیگه تموم شد. الان سه سال نیم اینجا بودم. دیگه فقط مونده بنویسمش. یعنی و جالبه ماست. اینکه فقط مونده بنویسمش. بعد برنامه زمان رو نگاه میکنیم میبینیم مثلا سه و چهار ما گذاشته که فقط یه مثلا یه هزار فورسه بگیرم دیگه بنویسند. این رو یعنی احساس میکنن که این نوشتن خیلی ساده است. و واقعاً اینطوری نیستش. حالا من یکی از این استاداممون من یادم این بنده خدا شما گفت ما موقع دانشو بودیم اینو چک میکردش که کجای کاری دا ا کاام اون داریم مثلا می تیز می نویسیم و اینا و خیلی سخته واقعا اونجا میریشیین شروع میکنه بنوشتم ولی گیر میکنه اصلا هی میخواد بنویسه میدونه میخواد بنویسه بنویسل بنویسه این بعد اوم گفتش که نه این همه تو مشکلتون یکیه اون سه چهار فصل اول که مال کارهای دیگرون کاتوپیس می‌کنید می‌ذارید هم که کار خودتونه که کاری نکرده نمی‌تونید بنویسید این مشکل اساسی دانچه‌ای دکترای ما هستش ولی در هر صورت نوشتن رو از همون اول باید شروع کرد حالا نوشتن چند تا چنت هستم داره از همون اول اگه هر قسمتی که دارید تحقیق میکنید رو از یه تا مقاله که دارید می‌خونید یه پاراگراف خیلی براتون جالب اومد یا موضوعی که قشنگ به نظرتون کمک کرد حتما اون رو وردارید با رفرنسش توی یه جایی برای خودتون بنویسیدید که یادتون باشه هایلایتش بکنه هر فرمتی که نحوه خوندن شما هستش اینا اگر انجام دادید و اینا رو داکومنتش کردید بعد از اینکه که حالا عواست ریسرچتون شد شروع بکنید یک شکل کلی به تزتون دادن خیلی اوورال یعنی چون هنوز هم شک نگرفته که بخوااممثلن تظ واقعا ساختار کاملش رو بدیم ولی تو هر چپترتون هر کدوم از این مطال که فکر میکردید اونا که جمع کردی بری فقط تو یه فایل وقتی بعدا که میاد میخواد بنویسید خیلی احساس خوبی بهتون دست میده که دارید مطلب حالا اینا بعد حالاش سر هم خورده بشه تک تک چپتر نوشتن و تموم کردن یه قسمت داستانه و ماها می خویم فیدبک هم خیلی هم معنی میدهمثلن ولی تا زمانی که این از سرهم زده نشد و داستان رو نبینیمش کامل نشده. یعنی بعد که سر هم زدیم دوباره که وقتی میره میخونیمش اونجاست که حالا میبینیم یه قسمت این چپتر بهتره بره تو چپترهای اولییه یا اصلا این دو تا این چپتر دو تا چپتر بشه یا دو تا چپتر یه چپتر بشه یا یه چپتر اضافی الان میسینگ شده این وسط اینا مرغیه که همه اینا کنار هم میاد اگر از ابتدا شروع کنید و این نوشتنا رو توی یه داکیومن بگذاریدشون و بعد فصل فصلش بکنیدشون خیلی راحت‌تر میتونید شک بدید مقاله نوشتن کار کردم و بعدش هم مقاله رو میتونید راحت خلاص پک بشه به عنوان چپترتون در بیاد الان دانشگاه از پارسال قبول کرده که تز با پابلیکیشن رو هم میتونیم بریم جلو حالا یک دو تا دوستان اخیرا آمده بودن احساس میکردن که تی با پاپشن کار ساده باران ما اگه بشه میخوام میری فقط پابلش کنیم و بدیمش چاپ اون که خیلی خوبگه واقعا تونستی شما چهار ژناال تا تاپ بگیری و بعد داستانتان به هم بخوره که خیلی خوبه یعنی بسیار اوننا معمول ارزشش خیلی بالاتره این تیپی شما در بیاری یه چپتر اول بزنید که داستانه بگی یه چپتر هم میخوره که دانشگاه قبول کرده که دیگه لازم نیست که مقاله رو آنپک کنیم همونطوری بذیدش تو اونجا اون, اون چپتر هاتون به شرکه مرتبط باشه به هم دیگه که اون ریسر پرابلم و اون مسئله که داری میگی رو جواب بده. در هر صورت نوشتن از روز اول و از طرفی همونطور که عرض کردم از تزتون بعدتون نیاده نه اون اشکالات که پیش میادش اشکالاتیه که مرتبطه و نیچره جز نیچر کاره و از طرفی هم اینکه، بهتره تموم بکنیم تا اینکه یه کار کاملا پرفکت داشته باشیم. بعضی از دوستانم میبینم که واقعا کار خوب انجام دادن، ولی خیلی وسواس میگیره تاشون دم آخری که جمعش بکنن، احساس می‌کنه هنوز تموم نشده، هنوز نه هنوز این قسمت من یکی از دوستان بودش که تموم کردش به ولی این بنده خدا شاید 6 ماه، 7 ماه، ما بیشتر از وقتش آخر کار خودش باحسه سپروایزرش مدام بحث ایشون می‌گفت نه من با منم صحبت می‌کرد می‌گفت نه اصلا راضی نیستم این کامپیوتیشنه امروز به نظرم به دلم نمی‌چسبه امروز یه قسمتش امروز احساسم همین چیزی. اینی که این اه, کار هیچ وقت پرف 100 درصد در, در نمیاد کسی هم که می‌خونتش باز از یه زاویه دیگه نگاه می‌کنه تش یه مقصر کردم ما فکر می‌کنیم کار خیلی ساده است اکزامینر می‌خونه تازه برنامه‌گرده با کلی برها هایلایت که واقعا این تست تز خیلی تزه بزرگی بوده به این فرم رفته جدول یعنی کار رو دست کم نگیرید و اینکه یه استانداردی رو یه حدی رو بگذارید و در اونجا رسیدید جمعش بکنیدش که بهتره که یه کار تموم بشه تا اینکه دنبال پرفکت کردنش باشیم و شاید هیچ وقتم نتونیمش تمومش بکنیم مسئله دیگر این که اکثر هم نوشتن تزه جزئی از پی ولی همه PhD نیستش یعنی یه قسمت حالا تحقیقی که داریم انجام میدیم یه قسمت سوشال لایفیه که در طول اون مسیر شما دارید استابلیش میشید و نالجهای مختلفی که میگیریدش و یه قسمتم نوشتن و کردن نتیجه کار شماست به بیرون که باید انجام بگیرتش. ولانتیر بشید در ارائه تزتون توی دپارتمان تو هر جایی که هستش. اصلاً من وای نصیب این که من آخر سمیرم تزمو یه باره راهی میدم. وسط تزتون دستونو بر بالا بذارید، برید ارائه بدید. خیلی خوبه. برید و بذارید فیدبک بگیرید از افرادیگه کانفیدن پیدا بکنید که دارید و مطلب دارید میخواد بگید و رو مطلبتون مسلط بشید داستانی که میخواد بگید عرض کردم اگه بتونید داستانتون رو با جامعه لینکش بکنی از اونجا بیاری خیلی راحت تر افراد رو انگیج میکنید توی کار خودتون که انجام بکنیدش و یه دکتر بعدی هم این که تمومش بکنید تزتون رو. حالا بعضی از بچه‌ها هم مثلا اواخر کاری یا اواسط کاری یه ذره به مشکلا رو, رو میشن یواش یواش مش... مسائل دیگه پیش میاد که بهتر این تزالو فعلا فعلا دست نگدرم فعلا بذارمش کنار یا بعداً بیام سراغش و بعد برم سر کار یا... یا به انهای مختلفی قانی بکنه خودشو که بعدن این رو بیام جلوید معمولا اگه گزارشش کنار اینا بیام بیایم معمولا صورت نمیگیره خیلی سخت میشه که بعداً دوباره برگردیم رو تز اینکه بتونیمش رو تمامش بکنیم هر کسی یک جور تز رو انجام میده هر جوری که حالا به هر حال هر تعداد فرمتی که از افراد بشنوید باز فرمت‌های جدیدم وجود داره یعنی شما یک جور تزتون رو انجام میدید خوندن تزای دیگران این خیلی مفیده حالا تو هر دپارتمانی تو هر جایی که هستی افراد هست بله تو کتابخونه هم هستش. من که دوستانم که تو دپارتمان با همزمان با ما دکتراش تمون کردش تو کار لیگال نوشته بودش بعد میگفتش که من یه 50 دلاری لای گذاشتم هر چند وقت با میرم کتابخونه نگاه میکنم هنوز سر جاشه نشو میده هیچ کی سراغ این تزه نرفته که بازش بکنه ورق بزنه میگم خیلی علاقه دارم میبینم اصلا واقعا باز میشه یکی نگاه بکنه اش البته الان چون دیجیتالم هستش شاید از کسی سراغ هارد کپی نره ولی یه نکته ای که خیلی مهمه تزه دیجیتال آره ولی یه نکته ای که هستش اه... حزای دیگران رو ببینیدش قبل از اینکه تز خودتون رو جمع بکنی چند تا تز رو حتما مرور بکنید ساختاری ببینیدشون انهای مختلف شکل و شمایلش رو بالا پایین بکنید ببینیدشون که بتونید بر حال یه ساختار مناسب بدید یکی از دیاگرامایی که خیلی مفید بود بودشا توی این کارهایی که حالا انجام میگیره نحوه تعامل یا افراد چهار تا حالا مطلب رو اینجا اومده عنوان کرده یکی،, یکی نحوه افرادی که تحقیق می‌کنن به صورت دیسکریپتیو هستن اینا می نویسن یعنی شما با سوپروایزر صحبت می‌کنید یا خود شما دوست دارید بنویسید تماماً موضوع رو یا یه چیزی رو توی یه جا می‌شناوی سری می‌کنید برای خودتون نوشتن اون موضوع یعنی های و فکت هایی که پیرامون اون تاپیکتون هست بعضی از افراد هستن که آنالیتیکال هستن اون‌ها ری می‌کنن رو اینی که هر کسی بهش هر موضوع رو مطرح میکنه حال به یه فرم دیگری اون رو تنظیم میکنه که تو ذهنش پیشینه یا بتونه تعامل کنه با افراد. اینا عملا پروف شده است که حال افراد انهای مختلف در و همین هم میتونه باعث دو تا برحال روحیه مختلف بین سپروائزر و دانش چوش باشه. دو نفر توی یه ف... قرار نمی گیرن یکی دیسکریپتیو رفته، جلوی یکی، رفته جلو، یکی رفته آنالیتیکالی رفته داره بررسی میکنه و اگه درست نشناسیم همدیگر رو بعد از یه مدت، شاید نتونیم درست همدیگر رو برها هر بکنیم قانع و موارد ببریمش جلو. حالا یکی از مسائل دیگه پرسوئسیو هستش که هر موضوعی که شما میشنوی، یه موزهی نسبت به اون موضوع می‌گیرید و یک نحوی نسبت به اون موضوع برای خودتون دیولاپش می‌کنیدش. اینم یکی از روش‌ها هستش که تو اون قالب اون موضوع رو به کلیم کردن و به یه موضوع دیگری میتونید مرتبش بکنی. یه قسمت دیگه هم هست کرتیکال هستش که حالا کار دیگران رو شما اولویت میکنید مقاله رو میخونید یکی یه چیزی رو گفته شما بسیار کرتیکالی اون رو میبرده زیر سوال و این بردن زیر سوال بد نیست اگه کسی هم سوالی تز شما رو موضوع شما رو ازتون سوال داری میکنی کرتیکالی سوال میکنه اون روش افراد هستش که بعد پاسخ شماست که میتونه این رو قان بکنه که این چیزی که دارم میگم درسته یعنی اصلا یه دفعه به جا نخورید دفعه یکی برگشت یه موضوع بگید حالا چون احترامشون رو دارم من اصلا یه هرچی گفتم فیان باشه. این نیست یعنی ساینیفیک میتونید صحبت کنید خارج از عرف اخلاقی هم آدم نمیشه داره صحبت علمی میکنه میتونه بحث کنه. پیرامون اون رو بتونیم داشته باشیم در هر صورت روش های مختلفی وجود داره این فقط بعضی از موارد بوده که حالا خدمتتون ارس کردم حتمانم او رو من به دا پوینتی حالا میدمش دوستان اگر به حال یه جا اگر مورد خاصی در پیرامون این بود خوشحال میشم باشم خدمتتون من جمع ب مطلب رو. از روز اول تعاملتون با سوپروایز شناخت روحیات سوپروایزر و اینکه نحوه تعاملش با به چه صورت باشه و بعد در کنار اون ریگولار آپدیت کردن این سوپروایزر از نحوه کارتون و مانیتور کردن کار خودتون ریگولاری توسط خودتون و با دیگران چک کردن کارتون و از طرفی هم خوندن خوندن و نوشتن بر هر حال مواردی که داشتی و اگرم حس کردید اشکالی توی کار هست حس کردید که به نظر میرسه که یه مقدار هست برطرفش بکنیدش این قالب رو سرتون درد بردم واسخواهی میکنم ولی هستم خدمتان اگر سوالی چیزی باشه پیرامون هم بتونیم بحث کنیم میفرم تا چه ساعتی شما هستید بخشید تا چه ساعتی اینجا... این دانشگاه دانشگاه اینجا ب... تا ساعت پنج گفتم بر. من فرق بفتم برای... بفرق بختم فرمونی که در باید استاد دانشوی که در باید قدرتی این من این هم که توی کار میکنم که اصلا خیلی کاری کار کاری باید سنتر نهده خودشید دانشوی داره باید خود کار میکنم و همه این ملیشون هم میبینم خیلی شد کار میکنم خیلی دوست نداره تو کاروانی وارد بشه ولی خب رازیه از کافی کام خو انجام کو ما خیلی او عالیه همه راضی هم خیلی خېل ولی اصلا همش موږ راضی ام ولی اصلا هیچ کاری من. من کار به کار ما ایمیل کار انجام اصلا جلسه دارید شما جلسه دارم چند وقتی بار جلسه میکنید interaction دارم ولی کار نه interaction هر چا بار انجام میدی موظف، یعنی سپر ویزن نمیتونه اعلام بکنه که من، اتا الان ما بز جاها هستش که یک یک بار دارم میبینن، ولی اگه بیاند اون بخواد بره، کار خلاف کرده، باید حتما با دانشوش ای انتراکشن داشته باشه، یعنی میتونید شما درخواست بکنید، منتحال ننگ کرده در طریق دادگاه، حالا خود ایشون، درخواست بکنید ازش و ایمیل بزنید میخوام ببینم امید. یعنی اینکه حالا ایشون سراغ شما نمیاد شما سراغش برم واسه که ارج کردم چون اواخر کار که میرسه دو چهار اشکال میشیم دوستانی که الان من یکی دو مورد هستش که آخر کارشون دارن تیزشون جمع میکنن سوپروایزر میگه که من اصلا کاری که من بخونمش درستم بخونمش الان وقتم ندارم بخونمش خب یعنی یا وقت نمیتونم زیاد بذارمش رو این کار حداقل این چیزی که دوستمون اومده بودش چند وقت پیشم آورده به با من گفتم بگو بس برای من گفته هر تیز هر چپتر تو یه ماپ با من بعد وقت بده من بخونم یعنی 88 88 ما بعد بیشتر حالا این تیز بخونه درست شد تازه نه اینکه تاییدش بکنه بخون ادش بده حالا ورژن های بعدی بعد این دوستامون بنده خدا مثلا فرصت کافی هم نداره که بخواد مثلا بیشتر بمونه اینجا ویزاش مشکل داره و مواردی که یعنی دوچاره مسائل بسیار عدیده ای میشه تو این قاله اینه که برای همین موضوع لازمی زودتر از اینها شما جلوشو بگیریدش یعنی اگر با این دوستمون اگر برحال ایمیل به هر ایمیل بزنیم که من میام صحبت بکنم پیشرفت کارتونم ببری با همون منو که من ممنون میشم اگر یه سری فیدبک به من بدید من میخوام مطمئن بشم که الان که وسط کارمه بتونم منیجش بکنم یعنی شما خودتون مطرح بکنید من نیاز دارم یه سری فیدبک بگیرم اگر میشالله به هر فرمتی همتی این فیدبک رو من ریگولاری از شما بگیرم تعیین بکنه هر چند با من بیا ببینمتون حق شماست که اینو داشته باشید نمیتونه تونه حالا چون به ایشون هم میگه همه چه خوبه شما هم اونجا باش منم اینجا هستم کفایت نمیکنه میتونید این رو بهتر ببرید یکی از فیر بعدا حداقل با شما فیر برخورد میکنه اون بحث جداست ولی غیر از این احتمال اینکه بر مشکلات بیشتر بشه میتونه باشه تو این حالا اگر دوست باشه بعدن حالا این مقدار بعدن این صحبتی رو هم داشته باشه یه مقدارش بهتر بدونیم بشه حالا رویی فرد مکانیک میخونی کجا هستی میتونم حالا اعتمار بدم با چه کسی رو به روح حالا <تصفح> این سوال ولی میگم باید با هم یه صحبتی رو بکنیم بد نیستشون میفرمون من چه تزمه دام بذاشتیم بله بله بعد چه تزمه داشتیم هر سماحیه بارم اومده ریفورتی رو بگیم مادانی پرزمتیشنگ و چنی میتینگ باید باید کامیتی بنامه تانم پراگرس یا اوکی او او او او میشه یا نمیشه من صورت هم دادم و طور شده که خب نوشتم ولی از طرفم میخوام که میگم جلسه میتینگ کانفرنس برای اینکه ما به تو فیدبک بدیم و چالش کنیم اصلا جای این که من بخوام چک کنم نه این طور نیستش کانفرم اینم یکی از اون داسانا است حال اینکه تعبیر یک سوپروایزر کانفرم یک از یه جهت راست می کانفرمیشن برای اینکه طرف بیاد کانفرنی بکنه و اون موضوعی که مطرح مطرح کرد موضوعی که داره تحقیق می‌کنه رو مطرح کنه پیشرفت اکساله شو بگه آینده رو هم مشخص بکنه به چه صورت در میگه که ببینیم واقعا فیزیبل هست این دانشجو توامن برای این کارش هست نسبتا به پیشرفتی هم که کرده ولی این به این چیز نیستش که اصلا حالا که من نگاش نمی کنم بقید. به هیچ وقت بخوسته سوپروایزر مین شما باشه نخواد ببیندش بگی و بیارید اونجا من اونجا به شما فیدبک میدم باشه که مثلا برای نان مانشورت همین کارو کرد بعد توی جلسه هم نداده معلومه که جملهای یی یعنی سیکیره و شما هم تو این بعد من یه نرم افزار تو قابلیت دانشگاه استفاده کردم البته اون نرم چیزی که میاد بالا اون رنگاش سبز بعد زرد و آبی و بنفش من قبلا همین حساب کردم فقط دیگه اوکی دیگه یعنی درصده سیمیلاریتی تازه بیوگرافی شام در نظر گرفته اون هم سبز بود نمیدونم واقعا اساساً ما حالا برای کانفرم دارم که من الان ریپوردان رو خرمه آماده کردم بردم به اشترد دادم که من هم نمیزیدم از یه طرف تیگه چه تزه من بابسته است به آقا که هر رفلکسی رفلیکسی بخواهم نشون بدم ترسم جبه بگیره بود و دو سال آینده کارم رو نه شما شب بتونید حالا با یه ایمیلی به ایشون بزنید حالا اگه یه ای مقدار شسرفته ایمیله رو خیلی به اون رو کرفت شده بزنیدشون که یه ریکوست بهش بدی که فلانی من این مورد که دارم بینویسم همین چیزی که الان اشاره فرمودید من زمین های مختلف چکام هم انجام دادم همه چی هستش ولی نیاز دارم که شما بر مثلا لیژ سپر من این موضوع رو ببینید و موردی هستش اوورالش من بگیرمش و به اردون بتونم من رو تنظیم بکنم که میخوام بیام ارائه بدمش و من ازتون خواهش می‌کنم ممكن... که این هم خیلی نکته مهمه این اگه از دران انجام بدید که اگه خدایی نکرده به اون قسمت حالا کانفرمیشن یه موقع عدیده ایشون یه طور دیگه اون موضوع رو دید اگر نخواسته دفعه کشیده شد به مراحل دیگه امیدوارم نشه ولی بتونه حال این اویدنس شما هم باشه تو این قالب که چه چیزی که دارید میگید چون چیزی که دارید میگید ایشون نمیتونه نبینه ایشون نمیتونه نگه به شما چون اون کسی که میتونه این کار کنه پنل ادوایزریه سوپروایزر کسیه که با سوپواز بکنه کار رو اصل اسمشم مردمه که بر با شما باید همگام باشه ببر جلو یکی از چیزهایی که حالا این دوستمون هم اشاره کردش تاپیک هایی که بر حال یه جوری باید لینک بشیم به اون اینتررس اون سوپوایز هم بشین یعنی البته جای تعصف که ما ببینیم که مثلا سوپوایز اصلا علاقه به موضوع نداره این چیز می شما هم اونجا باش و انجام بده همه چه هم خوبه ولی بعد می‌بینی آخر آخرص واقعا ساپورت هم دیگه نیستش اون قالب. که یه جوری لینک بک بشه به خود اون فیلد و اون طرف یا علاقه اون طرف که اینگیج بشه تو این داستان و این게ج هم من احساسم اینه که چون نمیتونه به شما بگه ایمیل به من نزن یعنی اینکه هر شکرم برایش براش ایمیل بزنید پیش رفت کارتون کارتونو بگید و مواردو بگید نمیتونه برگر به شما بگه بگم من وقت منو نگیر با ایمیل ها کافی که یه دونه از اینا رو بگه یه دونه حالا دوستاش بگید بشن یه نام بنویسیم ایشون تکلیفش مشخصه بر با چی جواب بده نمیتونه یعنی ما نمیتونیم برگردیم میگه آ بود دانشجو میگم آ این قبل من ایمیل نزن همون سه ماه یه بار کافی همون هم دیگر رو توی بر من می‌بینیم نه اصلا سرم شلوغه اصلا اجازه این کارو نداریم یعنی ریسپانسیبلیتی های وایزر هم کاملا مشخصه شما یه سرچ کنید توی دانشگاه می‌بینین که چه چیزایی رو باید جواب بدیم یعنی که شما محترمانه ایمیل رو بهش بزنید و در یعنی بگید من این موارد رو انجام دادم خواهشم از شما اینی که یه این رو مروری بکنی برای این موضوع که من مطمئن بشم و بتونم مثلا ببرم اگه موردی هم هستش بتونم درستش بکنم ببرم جلو اگر به حال مواردی که از جای دیگه اولا تیز حالا که بچه نگران بودن که من همه تیزمای دارم نمی‌دونم همش رفرنس همش به این اون رفرنس دادن همش نگرانه که یه موقع یکی جلوش بگه بگین بگی که همش کار دیگران رو تو اینجا کجا بوده اینه که هی دنبال این کلماتی که چه میشه از این رفرنس ها کم کرد حالا کسایی که مثلا متوجه نشن یا یه مقدار بگم بیشترشون من نوشتم شما هم تو تز باید با فکت و فیگر باشه برای همینه که هر چقدر رفرنس بدی درستشونه. یعنی آ دیگری اینو میگه،, اینو میگه اینو میگه اینو میگه همه این افراد اینو میگه من حالا این کارو کردم در قالب این با توجه به های این افراد این موضوع من میکسنس میکنه تو این قالب یا من رفتم جلو یعنی اینکه حالا این صحبت نشون میده که این اصلا به یه نفر نیتیو هست خب آره یه نفر دیگه هست ولی اگه رفرنس دادم بهش که مشکلی نداره تو این قالب این که نمیتونه حالا یکی من دوست دارم که شما ریوردش بکنی با زبون خودت همین مطالب رو بگی ولی اگه کوتیشنی از کسی داری چون اون بحثی که حالا بتونه برطرف بکنه اون شبهی که برایشون آمده خونهار رایت میتونیدش انجام بدید اینا ولی رفرنس رو نگران نشی فقط ای که داره این موقع از یک رفرنس خاص یه دفعه زیاد استفاده نشه درصدی که مثلا اینا یعنی یه صفحه نوشیش هیچ بار به یه یه رفرنس رفته خورده اینکه اون دامنه منابعی که استفاده کردید بنز کافی باشه بتونه ساپورتتون بکنه رو آرگومنتی که دارید و خیلی هم کلیئرلی بتونید یعنی تو کانفرمیشن داستان اینه که به حال اون صورت مسئله که داریم میگیم اولا پرابلم اون پرابلم باشه یعنی واقعا نشون بده یه من میخوام حلش بکنم دوم این که روشی که قراره این موضوع رو ما بتونیم جوابشو بدیم مکسنس بکنه با منابعی که داریم منابع زبانی زمانی که داریم میخوام انجام بدی با امکانات که قراره حالا واسه به نوع تاپیک اگر برای سیستمی هست اگر هارد وری هست مصادی هست داشته باشیم بتونیم پاسخور اون کار انجام فیزیبل باشه بر انجام دادن و توی اون یک سال گذشته نشون داده بشه که توانایی این که این موضوعات که داریم میگی تو داشته باشی بعضی آقا دوسا مثلا مقدار نگران میشن تا میتونن ابجکتیو بنویسن می تزدشون که حتما مطمئن بشن این پس میشه توی اینجا که کار خیلی گرفه ببینیم مثلا 5 6 تا تاپیک یعنی موضوع بسیار بزرگ رو داره میگم میخوام حلش بکنم توی این داستان. این اینم نیستش اینم برای سوپروایزر باید کنترلش بکنه که به اون حد نشه فیزیبل باشه برنامه یه تزد باشه کم هم نباشه اینکه آقا من حالا ابجکتیو اولام اینه که لترچ ریویو بکنم ابجکتیو اینه که آندرساندش بکنم سوم هم اینه که بعد از یه آندرساندنش این هم ابجکتیو نیستش اون هم جزو مواردیه که لازمه یه کار یعنی لیترچر ریویو کردن و اینها آندرسن کردن اینا جزو اونه مگر اینکه آیدنتिफाई بکنی یه موضوع خاصی رو که به عنوان ابجکتیو باشه یعنی یه مدت درک ابجکتیو رو درست داشته باشیم چی هستش اونها رو بتونیمش درست سره هم بزنیمش والدارا شما فقط میگام باز زدن این موضوع با ایمیل و مواردی که داشته باشو میگاره مسئله تون حل بشه یعنی آخه همون ترس هم که جدی بگیره برای آینده قرارا، آیا تا مشکل سازه؟ ولی نه اینکه شما بخوای ایمیل محترمانه بنویسی فقط تو ایمیله مواردی رو بزنی که من خواهشام اینه که این مورد انجام بدی داکومنت بشه این مقدار بهتر جواب میدم بعضی اینو افرادی که این تیپی هستن یه ذره حال محتاطانه عمل می‌کنه که این اومده خیلی هم محترمانه و سالیدا من نوشته این موضوع من نمیتونم بای بایپسش بکنم تا اینکه صحبت به شما بخواد همین تو بگه بعدش هم شما چیزی رو دار نکردید یعنی هیچ چیز غیر منطقی ازشون نخواستید کار و نیامدیدم تازه محکم چیزی کنیم محکومشون بگی این کارو نکردید فقط خواهش کاری که اگه میشه با توجه به موارد اینها رو بگید بعدش هم اگه دیدیدشون حالا خودش مطرح می‌کنه و اونم میتونید میتونید هم میتونید اتچ بکنید میتونیدم یعنی بعدم یک من بیارم بهتون بدم و یه جلسه با بزارم این رو صحبت کنمش یعنی حق شما هست این یعنی خارج از چیز نیست ببخشید اگر اگر موضوعی نباشه که کانفیدنشیال باشه، موخ از تاپیکه که روی پروژه در کانفیدنشیال ساین شده براش. اگر اون نباشه مشکل ندارید. مونتا 20 نفر از هوزنجانم میگه 20 نفر حالا مونج وبیاره یه بیا پیدا کنیدش برای کسی رو مونتا اینکه خوندن کسای دیگه ام من هم مثلا دیدم مال دوستان دیگه که مال دپارتمان های دیگه بوده فرض کنید کانفرمیشنش همینطوری فقط سر به صورت کلی نه اینکه از تاپیک سر در بیاریم یا موضوع رو فقط هم که اصلا ساختار این کانفرمیشن رو نگاه میکننی به نظر به عنوان یک فرد بیرونی متوجه داستان نمیشک که اصلا آقا برها این صورت مسئله کجاست من همینو خوندم نه اینکه شاخص این کاررسی می این رو ولی همین هم که نگاه میکنیم اصلا مشخص نیست که مشکل کجاست این مشکل هیچه مطرح شده سه صفحه به عنوان ریسرش پرابلم نوشتی ولی مشخص نیستشی برای پرابلم کجای داستانه پرابلم برها برای یه جو فرمولیت بشه توی یه پاراگراف دو پاراگراف و, پارا و پرابلم این پرابلم اینه در نهایه. که کار سختیه هم پرابلم به امرو فرموله کردنش ولی برحال یه چیزی باشه که سر به هم بخوره حالا اگه هایپوتزیس داره اینا نوشته بشه اگر نداره یه مقدار بچه هم میکساب میکنن بین آبجکتیو و بین ایمز و اینکه هم توش دارن که آقا من ریسرچم اینه ایمش اینه آبجکتیو بشینه ریسرچ کوشنام اینه هایپوتزیسم هم اینه اینم این پرابلمه ولی همه رو که میذاری کنار هم دیگه ببین اینو با هم دیگه جمع نمیشه یعنی واقعا جواب همدیگه رو نمیده. بکاب همدیگه نیستن توی اون قاله. در هر صورت دیدن این موضوع خب خوبه مطمئن من یه روش میگم من پیشنهاد می که حالا قبل از که به ایشون بار اولیت بگی من چیکار کساری خونم شاید در این قالب بهش بگید که من اینا رو تست کردم با اون سیستم واردینه و خواهشم اینه که اینه بررسی کنید و یه جلسه‌ای رو داشته باشم که نخ نظر رو شما رو قبل از که برم جلو داشته باشم برای اینکه بتونم مطمئن بشم که دارم درست حرکت می‌کنم یعنی این وظیفه‌شه که باید حتما به شما مثبت جواب بده نمی‌تونه یعنی بگه نه حالا بزنیدش این رو محترمانه بزنید اگه موردی بودش هم بگی اگر جواب ایمیل بزن که ایمیل بتونید بگیریدش بزنید من که این نداره اومد که گفته کوی سر ایمیل بعد از از آفیستون رفت یه ایمیل دیگه بهش بزنید که ممنونم از اینکه اومدید در آفیس و این موارد گفتی من سامرایز میکنم صحبتایی که کردیم رو چون این خیلی مهمه که این داکومنت بشه این که خیلی محترمانه هست اینکه بعد نیستش که آقا خیلی تانکیو بریماش برای همه فیدبک های بسیار خوبی که دادی و کامفرم کردی کار منم خیلی درسته من سامرایز میکنم مواردی که داریم پس من الان میرم این کارا رو انجام میدم اینم به بفرستم باز میاد در اتاقتون دیگه یعنی که شما این داکومنتش کنین چهار تا از این داکومنتیشن داشته باشی اونم حساب کار دستش میاد که یه جای این داکومنتیشن ایشون به دردش میخوره یعنی این داکومنت کردن خیلی خوبه قرار برای آخرت خوبه باشه باز اصلا قبول یعنی من قبول ندارم که اینجوری با من بچه کسی بود که نه نمی نمیتونه بگه همین بحثی بود که من بدم در دار بدم بهشون نه اینکه حالا دیتیل میخواد دیتیل براش بنویسی ولی باز داکیومنتی چیزی داشته باشه بگید من قبل ندارم که چیزی رو که شما یه روی شدید با من به شما میگی براتون بینویس بی... بی بیار به من هارد کپی بده درست شو هارد کپی بده شما یکی که دوستان رو همی دوست رویز پی شما ده به من میگفتش که من هارد کپی میدم بهش فیدبک به من نمیده من فقط میرم تو اتاقش میگه مثلا خیلی خوبه خیلی خوبه اینم. اومدی شما تو اتاق شما ایمیل بزنید دیگه نمیخواد بهش داکپنین. تانکیو بهش بگید و بگید پیرو صحبت که امروز الان جلسه داشتیم و اس یو که تو شما کانفرمش بکنید یعنی داکومنتش بکنید میگم دو تا سه تا از اینا پوی سره هم بخوره همون رو یه مقدار تعلیل میکنه. هم, هم اینکه که شما هم پروتکت شدید از این موضوع. چون میگم مشکل میتونه اینجا ایجاد بشه که بعد از یه سال آفه ببینیم هیچ دستمون نیست. و بعد نگاه میکنم اون طرف کلی هم مطلب داره حالا بهتر بهتره شما نویسه بهتره از شما میدونه می موضوعات چقدر اختیار حالا چه چیزا بعد دیگه نمیتونی به راحتی چلنجش کنی من ارزان برای اینه که حالا نه اینکه واقعا همه همه اینطوری میشن فقط برای اینکه این کار بهتر داکومنت بشه چون یادمون میره به هر حال انسانه برای موقعیت فراموش میکنه ببخشید کی میخوای سابمیت کنی شما یه سال دیگه مونده حالا اینشالله حتما از چه هست میگم خدمتون من اینو داشته باشم بند خدا را همون بر ما بر خواهی من از و که اول اس کی ہم شامہ عملی بر این examineه را دانشجو حق داره بگه به چه کسی ندید؟ ولی نمیتونه بدونه که به چه کسی میدن؟ یعنی توی فرمی که میاد برای آخر سک میاد حسصابیل میشه یه فرم سبزی هست که سوپروایز باید امضا کنه بعد چر examineشن برای امضا بکنه کنه و هد دپارتمان بره تو اون فرم که سوپروایز پر میکنه یه سوالش اینه که آیا به دانشجو این فرم شده و که میتونه یعنی کسایی رو لیست داده که به چه کسایی ندید شما میتونید اگه احتمال توی کاری رفتی با یه کسایی روبرو شدید و احتمال میدید که این امکان داره در باشه و هرچی هم شما میگید اصلا با یه چیز دیگه اصلا با کار شما کاملا مخالفه حقتون میتونید به این ندید به این فردی موقع نباشه شاید مثلا جزو اون لیستی که اون سوپروایزر میخواد ساجست بکنه نباشه ولی میتونید شما بگید به چه کسایی ندید تذکر من رو ارزیابی کنن اما سوپروایزر معمولا پیشنهاد میکنه به چه کسی بدن سه نفر باید انتخاب بشه دو نفرش برای اگزام کردن این تزه نفر سوم بکاب هستش با دو نفر اول باید حتما چک بشه صد کلمه تزه شما براش بره اون طرفم تایید بکنه قبول داره که اگزم بکنه تز شما رو نفر سوم لازم نیست باهاش در تماس بشم فقط اگر این دو نفری که میره برای اگزیミネیشن نظرشون کاملا مخالف هم آمد نفر سوم ارسال میشه یعنی یکی بگه این تست کاملا باید تایید بشه یکی بگه کاملا رد یا خیلی زده نقض باشه نفر سوم هر کدوم اینا دیگه با اینا باشه با اون نتیجه رو جمعش میکنه نفر سوم اون موقع تایید میشه حداقل یک نفر باید انٹرنشنال باشه حتماً هم باید از دانشگاه شما هم نباشه یعنی اینم یه نکته دیگه که توی اگزام... نه, نه اون نفر، هر سه نفریشون یعنی خصوصیات اگزمینر باید از خارج از انسیتوید شما باشه حد اقل یکیشون باید اینترنشنال باشه یعنی دو نفر نمیتونن نشنال انتخاب بشن برای تز شما باید حتما یکیشون اینترنشنال باشه توانفیل و همیتونم که عرض کردم در پنج سال گذشته باید سیبروایزر تیک بزنه که نه خودش نه دانشجوش و حتی یعنی امکان داره من با یه نفری رو تا حالا پابلش نکرده باشم ولی الان اومده اخیراً با ما مثلا کار قراردادی واسه یه قرار بیا تو مرکز ما تحقیق انجام بده اونم الیجیبل نیستش هیچو در نیر فیوچر هم قرار نیست با ما کاری انجام بده این خصوصیات اکزامیه باید باشه در پنج سال گذشته باید چیز نداشته باشه هیچ مسئله که کانفلیک با ایجاد نشه توی زمینه بعدش این میره برای ارزیابی این زمینه برحال هر حال که تو اون فیلد که معمولاً حالا دانشجو هم معمولاً میتونه حالا واسه به سوپروایزری که داشته باشه کسایی که اتمای نه این که به نظر بدیدش ببین نه این افراد تو فیلد من مثلاً خیلی کارشون چون بهم رو آدم بر متوجه میشه چه کسایی تو اون فیلد شاخص هستن یا کار کردن یا شما کاراشون رو استفاده کردید و باید اونها هم اولا آکادمیک باشن دوما در حالا تز اگزم کرده باشن یعنی اینطور نیستش که بار اولشون باشه باید انجام داده باشن و بعد سوپروا زن کرده باشن تز دکتر رو اینطوری نیست که یه نفری کاملا به خیلی آدم ناادجبهه ولی تا حالا تز examشن انجام نداده سوپروایز نکرده اون نمی تونه باشه. باید حتما توی این فیل باشه. اون هم که شما فرمودید از کردم اول صحبت. این اخیرن نامه الان برای همه دانشوهای فعلیمون هم آمده یعنی برای سپروایزر ها آمده که برای دانشجوی فعلیشون باید اون اپلیکیشن فرم پر بشه تو این قالب و باید سپروایزر تایید بکنه که حال اون مورد هیچ نوع این مال سپروایزره، حالا سپروایزر ها بعضشون با دانشجو هم در تماس شدن و اینکه آقا برحال یه هم چیزی اومده میشه مثلا زمینه کارتو خود درف بکن یا خودمون میدونه باید درف بکنه ولی به هر حال سوپوایزه باید ساین بکنه و برث هم حید دپارتمان باید ساین بکنه که تایید بکنه این مطالبی که اونجا نوشتن دقیققا مطالبه که مثلا این دانشجو داره کار میکنه و به این فرم که اون مواردی که جزء ممنوعیت کاری تونا تو نیستش این باید باشه اگر یه موردی باشه بین آره یه تیک بزن آره این جزه اون تا زمینه محدودیت دار هستش بعدا باید بیاد جواب بدن که حالا قطعا و و با دانشجو صحبت کنن که این تاپیک بعد یا ریایز بشه یا هر فرمت که داره انجام بگیره منطقه هر نوع تغییری من قبلا هم به دوستان عرض کردم سعی کنید همونجایی که هستید باشید یعنی بهتر کمترین تعامل تغییر سوپوازه به خصوص تغییر سوپرواایزه و تاپیک اینها قطعا حساسیت رو بیشتر میکنه به دلیل الان مسیری که هستش که اگر این دانش چون ویزاش با تاپیکش لینک میشه. اگر قرار شد تغییری در شرایط این دانش رو پیش بیا باید حتما با این میگریشن انتظ بشه که مطمئن بشیم که این موضوع هنوز همون هستش و به همین دلیل دوچار برال یه سری مراحل بعدی و اساس های رو پیش میاره که می تونه بر رو پیش بیاارتش. ا <تصور> که <تصور> ما تنها چیزی که تو زندگی یاد گرفته همیشه امید به فردا داریم یعنی همیشه بهتره ان شاءالله میشه حالا یه موقعی مسیرای کردم واقعا دست کسی هم نیست این مسائلیه که پیش آمده و حالا بعضی که اینجا معمولا از یه جای دیگه الهام میگیره قوانینو میذارن ولی همون جایی که اینا ازشون الهام میگیره اونا تو قانون اکویکیشنشون اصلا این موضوع رو قول جدا اصلا بهش چیز نمیکنن ولی متاسفانه این هست الان این هست و آدم راحت بشه عرض کردم بعضی از دانشگاه اومدن راحت کردن خودشون گاه اصلا نمیگیرن دیگه کار چیز نداره ولی اینجا اونا رو نداره بورسش هم داره میده مونتا مسیر مقدار تر مسیر ارزیابی موارد و بعدش هم چیزی که به ما خواستن که دانشجو به خصوص اگه رفت برای تغییر تز تغییر سوپروایزر حتما فلک بزنید یعنی این میتونه پتانسیال باشه حالا برای و به همین دلیل که دوستمون آمده بود از یه دپارتمانی که خیلی علاقه دارم از اون دپارتمان جدا بشم بیام این دپارتمان از اون تاپیک بیام این تاپیک از این سوپروایزر بیانی کاملا کیسیه که مثلا فرض کن راحت همه رو برا علاقه من کاری به و همونجا باش همون واسه چون الان فرصتش نیز. الان زمانش نیست به جای اینکه یه همچین چیزی میتونه اثر بذاره رو کار خودت و تو چاره اشکالات اساسی بکنه این کار رو. رشهتون چیه اساسا؟ شی من هیچ از نوشتم و به خودم با با با خودم تعریف کردم این با... اینکه بعد خودتون تعریف رو خودتونم بنویسید اینکه کار خوبیه که انجام دادید. منتها نخوندن اونا. کنفرم کردی دارم. به این حرکت ها از موضوع کلمات نمی‌تونم. چون فقط تعدید دارم، می‌دونم نه، که این چقدر شانس انجامش دادنش چقدره. و اگر این ابجکتیو نداشته باشم، حالا با چی کار کنم این از که انجام می‌دم می‌تونم کالیکشن زیاد داره چون هم موادی که کار می‌کنم جایی دارم، هم توکن‌های که ازش کار می‌کنم با جامش یعنی صحبت باشه من چیز از من ندارم که حالا کار رو کنیم پانی حالا من دارم اینو انجام میدم مشکل دومی هم که واسه اینه که من آزمایشایی که انجام میدم از اول از با تیم من یه بخش از کارام به صورت از من خودم تقسیم میکردم یه فاز کارام تقریباً تمام شده تو کانفیگ واسه کانفیگیشن آوردم اینجوری هم هست که ایشون فالو میکنه یعنی ما هر هفته دو بار هم میتینگ داریم شامل هم یه جوری من نتیجه میدم، رضازاده که دفتر اینم فر آزمایشگاه اندازم نشو میدم، ایشون هم نگاه میکنه ولی متواها چون تو زمینه اکسپرت هیچ یعنی نمیتونم من بگم که اینی که من گفتم الان درسته یا غلطه. من اون موقع به این فکر نشدم که که میکردم خودم اوکی دیگه. تا اینکه رفتم کانفیگ میشن اون دو که کمیته ممبر من بودن در واقع که یک بخشی از و انجام در این انجام و یه سریاش چتهش باسا من مشکل دارم که حتی کامیتمنت از من پرسید که شما این غذات دارید یا سفرا ویژه من تو من تمام دیتای من دیدن ولی خب میگم یعنی من سفراط شده بودم تو کافه میتونم که سوپ من سفراط شده بود چون میگم چی بود که خودشون هم اکسپرت مشکل دارم میگم انجام میدم رو ولی اطمینان ندارم اون من انجام ما سوپروایزر من باشه کنم که این وقت جداگانه ولی یه صحبتی رو با هم داشته باشیم تو اون یه راهی داره حالا این رو بشه این مقدار تعمیر یعنی شاید بهتر اش که و تعجب میکنم اگه سوپروایزری اصلا تو اون فیلد نیست پذیرفته که سوپروایز بکنه تاپیکی رو که اصلا کارش نیستش و خودش هم حالا به حال سوپرایز شده تو این داستان و الان هم هفته دو جلسه هم جلسه داره با شما که یعنی همگام با شما هم داره میاد جلو که ببینید داستان چی چی هستش ولی خودش هم مطمئن نباشه مثلا این داستانی که حالا داره کار میشه اصلا میتونه به نتیجه برسه نه ولی یه نکته‌ای که هستش ابجکتیوهایی که شما تو کانفرمیشن میدید اینا میتونه تغییر بکنه حالا این نکته‌ای که هستش حتما 100% فیکس نیستش که تا آخرین روز بعد همینا بره جلو اگر ولید است و داریدم بهش میرید و ادامه بدیدش ولی وقتی که با هم با همون سوپروایزر میرید میتونه ریفاین بشه میتونه ریفاین بشه و نسبت به اون چیزی چون یه مقدار که میری جلوته امکان در به نتایجی برسید که رد بکنه اصلا مثلا یه ابجکتیو بعدی که قرار بود داره انجام بدید این میتونه ریوایز بشه میتونه ابجکتیو دیگری برایش تعریف بشه دیگه اون قرار نیست و اون هم میتونه بعدش با پنل ادوایزریتونم میتونه مطرحش و نسبت به همونام هم بری جلو و تزهتون رو جمعش بکنیدش ولی مطمئن بشید که به هر حال اون کسی که باهاش دار کار میکنه یا حداقل اگر الان چه مدت شروع کردی؟ حداقل 13 تا 14 ماهه یعنی به هر حال بد نیستش که تو این قالب حالا با فرد دیگری که فکر میکنی تو این زمینه هست تو دپارتمانتون هم احتمالاً وجود داشته باشه با اونم چکی بکنید یعنی نامه کارم اضاف پیش اضافه پیشنهاد اضافه کردن کسی دیگه‌ای رو به عنوان کو سپر وایزرتون بگذاریدش یعنی با سپر تو مطرح بکنی شبه اترین راهش اضافه کردن یه فرد دیگه هم تو کارتون که اون کار رو بشناسه باشه تو این کاره یک نفر الان سپر وایزره خودمون که یه دپارتمان میکنم که باز فقط نه کار اصلا خیلی شده حالا بعدا رو بکنم اگر دیگه هستش اگر یکی دو سوال دیگه باشه بعدش من مزاحمت باید اون رو میگیم 20 متر. شبیه سال دوستان رو بچو خوش نداریم. بگی دوستان نزدیک کانفرم بشه و فرصه هستش فرصه کار گذاشتیم روی ریو پیپر دادن الان و چیزی که مطرح کرده باشین که حالا کانفرم خیلی مهم نیست و میتونیم راحت برید جواب بسام. ادش کنید حال یه ماه دو ماه این برامون خیلی فرده نمی‌کنیام چه حرفی و بعد که شاید صحبت بکنه پروژه بدون که من وقت ندارم असाینمنت دارم دوغون نمیدونم چیکار بکنم کانفликт مال این دانشگاه بعضیش این بود که بچی شی... چیکار بکنم که این به کج... مثلا با یه دیگه باز با بشه در می دوستان مثلا بعضیشون خوب خیلی نگران میشن از اینکه کانفلیکت ایجاد بشه این چیزی که الان شما میگید یا مطرح میکنید این خیلی این حق اولیه دانشجوه. این نباید ایجاد کنه امفیکی که اول بچه ها ایرانی با خصوصیت اخلاقی که دارن کمتر و دو دوچاره ایجاد کامفیک میشن. ما معمولا پذیرا هستیم هرچی هرچی که طرف هم بگه. بر حال پذیرایی. این درسته. اینی این که کمتر دوچاره اشکال میکنه که بخواد کامفیک ایجاد بشه. ولی این که حالا الان اینشو مثلا خاصه شما یه دنو مثلا پیپری در توی امین چیز بمیسی این نکته بعدی نیستش اگر هم حالا باز برای این دوسمونم ببینیم وضعیت اون. تا 12 ماه گذشته اش به چه صورت پیش بوده چون میگم همه این اشکالات موقع خودشه نشون میده که حوشته اما هیچ کاری صورت درست انجام نگیرین دم آخریه که اومد حالا میخواد کامفر میشه بعد یواش یواش میبینید که سوپروایزری یه چیزی میخواد یا از اول همین میگه من اینطوری میخواستم این متوجه نشده داستانو ولی اگر بتونه حالا مقاله‌ای رو داره رو مخالف بنویسه همونه یعنی خود کانفرمیشن شما یه مقاله میتونه باشه به طور بسیار خوبه که رو هم کانفرمیشنتون یه پابلیکیشن داشته باشید که کانفرم بکنید افراد دیگرون یعنی به دیگرون هم اطلاع بده که من دارم روی این زمینه کار میکنم یه جای این استم بخوره که بدونن که یک نفرم تو این دانشگاه داره روی این تاپیک کار میکنه خیلی میتونه نکته خوبی باشه ما دانشجوی داشتیم دانشوی چینی بودش که یه خانم بود که یه سیستم الهی دیسیژن ساپورت سیستمی رو کرده بود منطقه این که این بند خدا انجام داد موقعی که کارش تموم شده بود میخواست ارائه بده کلی از این سیستم به صورت کامرشیال بیرون اومده بود یعنی سیستم های بسیار بهتر از این چیزی که این بند خدا میخواست ارائه بده و این نتونست دفاع بکنه از دکتراش به عنوان یک کار نو. به دلیل اینکه پابلش پابلیش نکرده بود و عملا خروجی کاریشون خیلی راحت یعنی هر جای که مقاله من برزون ببخشید اینکه دارم میگم من اینو کار کردم اینکه بیاد به صورت پابلیک نالیدج الان روی این سایت ها هم هستش و چه چیزی این رو ما میتونیم بهش کامفرمش بکنیم به عنوان کار نو که بخوام پابلشش کنیم چه برسه تز دکترا بخواد روش بده که من این رو پیشنهاد دادم این روش رو و به همین دلیل است که اتفاقا اگر کانفرمیشن با مقاله من بشه چیز خوبی میتونه باشه ولی نه به این که خیلی بخواد یکی دو هم راست میگه مشکل خاصی ایجاد نمیکنه میتونیم درخواست کنیم آقا به دلایلی که این هست یه ماه دیگه ولی خود اونم یه حدی داره یعنی از یه حدی بیشتر سوپروایزر هم اجازه نداره که بگم مثلا با شالشون کانفرم و سر سال دو سال دوم سالو بی انجام بده نمیتونن چیکار انجام بده باید در یه حدی بسته بشه دلیلش هم نوشته بشه توی این کار بیاند یه حدی باید ادوایزری هم تشکیل بشه و نچ بدن که آها بهشون 3 ماه می بدیم چون پیشرفتش مشکل باشه و نیاز داره چیز بشه که اگه حالا بهتر بدونم حالا موارد قبلی شوشار را بشه چیز کردی؟ اگر بذسم سوال نمودنم میشم داستانی که استاد راه نواشت ازش میخواد که یه ریو ری پیپر بنویسه و مشکل اینجاست نی که وقتی شما ریو پیپر مینویسید، اجکتیوی برای آینده تون برایش بررسی نمیکنیم. اینکه میخوای خودم حالا بر, بر فرز بیام و میخوام من میخوام چیکار کنم. و چطور میخوام کار انجام؟ من نمیدونم منظور شما موقع از ریویو پیپر چی؟ ریویو پیپر فقط این نیستش که من ده تا مقاله ریویو کردم این شده مقاله اطن از یه جا شروع میده اولا الان جورنال خیلی سخت پیدا میکنه که بیاد این مقاله که فقط ریویو کرده ده تا مقاله دیگر رو سامرایزش کرده بخواد پابلیشش کنه موقع این ریویو پیپر من ولید هست که بتونه به یه ریسرچ پرابلمی ختمش بکنه که این ده تا رو ما خوندیم یا این موارد چلنج بکنه این اینو گفته اون رو گفته این اینجا رو اشکال داره این اینو گفته با توجه به اینها موضوع این هستش این موارد فرض کنید ایشویی که الان وجود داره و نیاز داره ریزالو بشه آخرش هم میتونه بگه This is part of ما آن گوینگ مثلا فلان چیزی که یعنی به یک نحوی باز ساپورت کرده تز خودشو یعنی ری ری ریویو پیپری که الان میگم من ندیدم حداقل تو فیلدهایی که با آشنا داشتم مقاله رو فقط در حد سامرایز کردن بخواد چند تا مقاله دیگه پابلش اساس میزننم که ما ریویو پیپر چیز پابلش نمی کنیم ولی اگر شما اون رو به عنوان ریویو پیپر ندید عنوان یک تونه عملا ایجاد یک تاپیک جدید دارین مطرحش میکنید اونطور تو اون کانتکست اومدید مقاله مختلف رو همون بحثی که حالا کردم رو بحثی کریٹیکالی اومدید اساسش کردید و برمبنای اون به یک ریسش پرابلم ختمش کردی اون میشه نتیجه کار این دوسته خب لزومی نداره توی این مقاله بده ولی خود اون دوستمون باید اینی که داره به اینجا ختمش میکنه عملاً متد خودش رو تا حالا دیولوب هم کرده باشه یه چیزی روی بین هفت ماه تا نه ماه باید پیچر اون تاپیکتون رو زین خودتون کاملاً داشته باشید بقیهش میشه ریفایمنت این موضوع اگه رسیدیم به 12 ما هنوز نمیدونیم داریم چیکار می‌کنیم سوپروایزر نخواستی یا هر مردیگه یه مرجع جای نگریانیه اگرم ریسرچو شروع کردید نگران شدید توش جای خوبیه یعنی یعنی اگه یکی من نگرانم روی ریسرچم آدم خوشحال میشه یعنی تا اینکه نگرانی اونجای میشه که یکی بیاد بگه آقا من ندارم میرم جلو هیچ نگرانیم هم ندارم همه چی هم خوبه کلا تا ان شاءالله همینطوره هم ولی اینکه نگران نباشه میتونه احتمال اینم بشه که اصن هنوز موضوع رو ریزیه این نگرانی جای خوبیه ولی نگرانی که میشه منیجش کردش فرحال اون دوسته اون میگم اینکه متد نداره متدو برای خودش داره تو اون پا مقاله پابلشش نمیکنه تو اون مقاله به ریسچ پرابلم ختمش میکنه منتها فرموله کردن اون مقاله خیلی مهمه که از دید اون ژورنال اینو نبینه که آقا این مقاله ریویو چه ریویو فقط انجام دادم کانtekstرا اصلا داستان یه جوری سر هم بزنه راحت تر میتونه بپزه برای سرتورو درد ورم از خی می‌کنم اگه موردی چیز دیگه ای باشه حالا ایمیل بزنید یا فرصت دیگه حتما خدمتون هستم من جایم قرار دارم برسم حالا برگردم بر برای خوشحال شدم ممنونم از اینکه فرصت دارید خدمتون باشه و ارص کردم اگه موردی بود حالا موردی یه موقع شخصی یا موردی باشه که اینجا نشد مطرح کنیدش بر حال میتونیم یه فرصتی خدمتتون باشم جذابونه رو صحبت بکنم موفق باشید